اللهم صل على محمد وعلى محمد اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پناه می بریم به خدا از شر شیطان جن و تبریک عرض می این ایام روسا رو خطاب شما اه. امیدوارم که تندرست سلامت باشید مهم جس بفهمید رو شروع کن. خب در نگاه کلام الله مجید، در نگاه خدا اینو که یه خورده استانداردهای خدا با استانداردهای ما یه خورده نه خیلی فرق داره. متاسفانه خوشبختانه خدا برش هدایت آدمو خیلی مهمه. خیلی خیلی خیلی و آدم هدایت نشده، آدمی که امکان هدایتش نیست. ببخشید. آتم که امکان هدهتش دیگه واسه شو آم بله هم ازل از حیوان بدتره این اصلا حیوان ارزش داره اینا استعاره هایی درش نهفته هست مثلا که چهار سال پیش پنج هزار،, پنج هزار سال پیش به نوح میگه که خر و شغال و گاو و اینا رو سوار رو کشتی کنی اینا رو نه سر پسرش یه مکالمهی هم داره که این هم میگه نه نه نه اولاد نه اصلا حواست باشه یون مثلا شغالت سوار کن اینو نه یه از حیوان بودنش خوبه اما انسانی که امکان هدایتش نیست یک حیوان باهوشی که میتونه از یک گرد به مراتب ضربات بزرگتری بزنه فرشته هم همین ها رو دیدن نیگه گفتم برای چی میخوایی بیافرینی همچین موجودی رو که اینطور امکانه فساد داره خدا پاسخشون داد خب از این جهت میخوام بگم که به کارتون به شغلتون اینطوری نگاه کنید پیامبر حریص بود بر هدایت انسان ها یک نفرم حالا مخوان سالانه ده ها نفر در اختیار شما بگذارن بعضیاتونم از الان کارتون شروع شده این فرصت تره یک نفر همتون کلاس اینقدر باید قربالتون ریز باشه یه نفرم از اون رد نشه این خیلی مهمه شاید بگه از من رایفی پور بپرسید مثلا مهمترین ویژگی این که بعد این چی شد رایفی پور شدی میگم همین من واقعا سر تک تک آدم دغدغه داشتم ناز دوره دانشوی همین طور بود این حس درتون به وجود بیارید اگه ندارید اگه دارید بپروروندش مقدس نه زیر دست بین بره همین بچه که شما زیر دستتونه یه روزی مینید منجی کشور میشه. کلی از مردم رو به راه راست میره. کار بزرگه دیالا توی سیستم کاپیتالیستی لیبرالیستی که اصالت سرمایه و سرمایه سالاریست کارخونه دار خیلی ارزشمند و عزیزه یا اجزام و اجناسی رو تولید میکنه اونی که انسان درست میکنه چه جایگاه میتونه داشته باشه انسان درست میکنه برای انسانیت نه انسان تربیت کنه برای کارخانه بله اون الان یعنی بازم باید انسان متخصص تربیت که برای تولید بیشتر ما الزامن این نه آدم درست کنی جلو جنگ بگیره آدم درست بکنی جلو جنایت و ظلم رو بگیره برای معلم شغل انبیا. مقدمه را گفتم نذارید دوچار روزمرگی بشید دوستان. مسئله دیگه این که خودتون رو اطراف بار بیارید. درس های شما در دانشگاه، در مدرسه، در محیط های اطراف شما این نیست. تعارف نداریم. حقم دارند بالاخره شما یه سی رو بخونید که برای رشته تخصصی خودتون میخواد بچه های مردم رو پرورش بدید. آمادگی داشته باشید، فرصت نیستش، خودتون حتما مطالعه بکنید. حتما بعد شخصیتتون، اطلاعاتتون جامعال اطراف باشه. چون خیلی وقتا بچه ها از معلم ریاضی نکشته های دینی رو بهتر میپذیرند از معلم دینی. تقریبا همین ها این رو بخوام بگم. یعنی شما اونجا فکر نکنید رفتید مثلا چه میدونم یه تانژانت کتانژانت برای رو حساب کنی باشی بیای نه این خیلی مهمه مسئله دیگه این که کسی که روی انسان داره کار میکنه باید انسان خوب بشنوزه بنده به عنوان یه پژوهشگر تحلیلگر وقتی مخاطب من انسانه برام مهم شد یه دو سالی رفتم نوروساینس خوندم عصب شناسی خوندم بعد روان شناسی رفتم خوندم فقط برای اینکه بفهمم اینجا میدونم چه چیز را میخوام انتقال بدم به چه کسی هم میدونم میخوام انتقال بدم اما چگونگیش مهمه شما اگر این ساختاره موجودی که مقابل شماست درست نشناسی چطور میخواد روی اثر می مگی میشه یه نفر هرمونا رو نشنسه بخواد کسی حرف بزنسه کسی از این طور نیست متاسفانه حالا اینجوری شده ها یعنی یه نسخه یکسان میدن به همه آدمان نه آقای نه الان یه تحقیق همین صبح برای که بچه داشتم میخوندم انجام رو بری صد و تا مرد چی میشه که توی این مردا وقتی یه خانومی میاد باشه محترمان رو صحبت میکنن اینا میکنه. چی میشه اولو؟ آره یه فکرهای میاد سراغش این که محترمانه و مهربان صحبت میکنه یعنی ای نه این پالس داره میده و بعد آوردن اینا رو دو گروه کردن یه گروه اول تستسران دادن کم دارم یازدن میلی گرم چمه؟ بعد به اون گروه دیگه دارون اما دادن که اثر تلقین رو از بین رو به وضوح در گروه اول این پر رنگ تر بوده یعنی گروه اول برداشتیم داشتن که این خانم مشکل داره این مرضی داره کرمت درخته خب اثر هورمون بر تصمیم اثر هورمون بر بعد اینا اینها ندونه سر صبح بچه معلوم میده از تعبیل شما میدن یکی سردیش کرده با قول ما یکی گرمیش کرده یکی اینا اینا هر کدوم یه لم دارن متاسفانه تو ساختاره کاپیتالیستی و نظام سرمایه دارید چون دنبال این بود آدم برای کارخونه درست بکنه به آ... به, به دید کارخونه نگاه کرد دیگه همه کلا کچل همه یونفرم یکسان فیلم که تاجه که میتونست حتی نمیتونست تحمل کنید لباس های بیان بشه فیلم که کالا های متحد وشک اگه میتونست با کدم میزد خ خب. چون ناخود اینا اثرشونو گذاشت نه اینا هر کدوم یا شما همین همین خودتون نگاه بکنید با خواهر برادراتون تو خونه کلی جنگ جوانی داشتید یا دارید هنوزم دعوا دارید با هم چرا؟ جفتتون توریده یه کار خونه اید یه <تصفح> تربیت، یه لغمه، یه نطفه اما کلی تفاوت، بله و چطور شما از 30 تا 40 تا دانش آموز بیان سر کلاس میشونن هر کدوم مال یه فرهنگه خانواده، یه ژنتیک یه جغرافیا این هم فرق دار اصلا این کار علمی و صورت بگیر رو هوا کار نکنید رو هوا حرف نزنید برید آمارای رجوع به پزشکی قانونی در کشور رو برید ببینید نیمه شمالی کشور به وضوح و به مراتب رجوعشون بیشتره تا نیمه جنوبی. سیستان و بلوچستان آخرین استان ماست یعنی جنگ و دعوا و جدال و این در سیستان بلوچستان هست همه جا کمتره نیمه شمالی کشور از از هر چم تر میشه شما واقعا امجج تندتر میشه خلق و خو اردبیل نمیدونم مازندران خراسان رضوی اینا جزء بیشترینا خب این یعنی چی چه ربطی بین جغرافی ها؟ چه رب بین جغرافیا چه ربطی بین فرهنگ چه ربطی بین ناخداگاه جمعی مهم اینو شما میخوام بریم با این بچا هر حتی اگه سر کلاس به یاد نمی دارین تو خودت برو یاد بگیر او رو مطالعه کن الان به خدا قسم با این ابزاری که شماها دارید به قرآن اگه ما داشتیم یه اینترنت دایلوگ تخیلی و جز صدای مزخرفی هم در می آورد می تونستی متن بگیری الان تو گوشی هاتون دلتون انوا اصلا هر سایت یوتیوب نه خوش دانشگاه زبان بلد نیست میزنن زیر نمیش میزنن فارسی می نگاه میکنی قشنگ این امکانات رو قدر بدونید بهره ببرید همین ابزار هوشمند کلام فرامیشه واقعا یه دستیاور برادم واقعا یه دستور. <تصفيق> <تصفيق> گفتم که من اول نصیحتتون کنم ارچان فایدهی نداره من حجت بر خودم خدا تمام کنم بگم من وظیفم بود خدا به اینا بگم و اما مقلی خان امام قلی خان و خوندود مقلی خان بریم راجع به مسئله من منتر من میخوام از یه زاویه جدیدی بهش بپردازم چون میدونم اینا رو تلویزیون به شما نمیگه ببینید عزیزان مسئله اقتصادی در اتفاقاتی که در دنیا داره میفته بی نهایت مهمه و حرف اولو میزن مسئله اعتقادی در لده های بعدیه فرهنگی اجتماعی نمیدنم شیناک هستن هیچ ما امروز اگر برگردیم به یک سال گذشته و عکسی که نتانیاهو در سازمان ملل به دست گرفت و یه نقشه رو نشون داد که از هند با ماجیک خودش خط کشید گفتش که از هند یک راه کوریدوری جدید وصل میشه به خدمت شما ارز بکنم از هند به بندر بنبعی هند به امارات از امارات به عربستان و سعودی و از عربستان و سعودی به اردن از اردن نقشه رو بیار تو ذهنتون یه خبر میگن که نقشهش تو زهنتون دیگه ها یا اول فاز یکی یکی اینجور نه یکی چششین چیکه رفت تپ می ریخ بری خونه رو پیدا کنم خب بعد آره اردن از اردن هم به اسرائیل بندر حیفا از اونجا به قبرس و بعد بندر پیراوس یونان خب وقتی رئیس جمهور یه جایی که میدونیم نخست وزیر یه جایی که میدونیم این جا عادی نیست میاد یه همچه حرفی میزنه چند تا مطلب داره اولا یعنی تصمیم قطعی دوماً یعنی آنچه که پی آشکار میکنن از آنچه که پنهان کردن به مراتب کمتر است این نکه یخه ببینید چه روابطی پس پرده بوده یعنی چیزی بین هند و اسرائیل هست چیزی بین مثل امارات و اسرائیل هست بین اردن و اسرائیل هست بین قبرس و اسرائیل هست بین یونان و اسرائیل هست بله خود جنس بیار دستشونه حالا اون بهشون برخورد رفته خریدید یا داشتید؟ داشتم بچه برکه الله نگذرم عوض شد با تو خب شما خیلی دارید فضولی میکنید سلام همشون خب خب ندیگه خیلی داشتیم تونتون دارن میخونن چی داره با؟ عکسشو گرفتید من بنار رو برین کجا می‌ذارم لپ‌تاپم تو که میخوام بدوزن تو عکسشو گرفتی بابا باشه من واسه بشم به اینترنت مستقیم بریم سیر و گلکی کنیم ببینیم بله ارزمیکنیم خدمت شه اگر کسی وقایع منطقه رو بدون این بخواد تحلیل کنه یقیناً تحلیل خام و احمقانه است. اصلا کل ماجرای مساومه چین بود. کل ماجرای شلوغی‌های هنگ کنگ به چین ربط داشت. کل ماجرایی که بعدش تو عراق اتفاق افتاد به چین ربط داشت. کل ماجرایی که بعدش تو فرانسه اتفاق افتاد به چین ربط داشت. اصلاً حرفو چی چیه؟ شما برید اینا که میگم برید سرچ کنید، سخنرانی من دانشجو شهید رجایی هم هست تو اینترنت برید دانلود کنید. به محض اینکه عادل عبدالمحدی نخست وزیر عراق با شی جنگ پینگ رهبر چین جلسه گذاش عراق ریخت به هم اون سالی که هنه حاج قاسم زنده است خاطرتون باشه عراق بد جوری ریخ به هم آشوب شدین این قیام جوکرها این متوسه چرخار میوردن پارک میکردن میریختن به هم فکر برای چی بودین پالس به چین و عراق که ما اجازه نخواهیم داد شما پاردام شیفت کنی. اجازه میدیم تو ما اومدیم عراق اشغال کردی بری با چین ببندیم حالا مثلا بدبخت عادل عبدالمحید چی میخواست میگو بابا ما اگه بزرگترین دارنده های انرژی در دنیا هستیم به قرآن زای است برقمون انقدر چیه منیر گفت برق, من برق میخوایم آمریکایی براش نمیزنن رفت با چینی ها قرارداد ببنده بگه ازیمه به نفت وردو ببر بر ما نیروی گو بزنن کنه به یک هفته دو هفته عراق با آشوب کشوندن. ماجره خانم و امینی هم همون اتفاق افتاد رو... روزی به شما 25 شهریور ازاد 400 ایک رو برید نگاه کنید دیدار رئیسی با شی جین پینگ در اوزبکستان برای پیوستن ایران به پیمان شانکای در همون روز کشور ریخ به هم من شوخی برداره سال بعدش فرانسوی ها مکرون سفری کرد به چین در اونجای خورده گنتر دهنش حرف موزد بیرون از پارادایم آمریکا، بیرون از تیم آمریکا با چین ارتباط برقرار کرد. بابا گندتون آمریکاست، او باید بوق بعد اجازه بده. اما رفت اونجا گفتش که اولا ما در ایندوپاسیفیک از هند تا بگید برید اون طرف تا ژاپن، منطقه اقیانوسیه. ما با چین کار نظامی مشترک انجام بدیم. فرانسه گفت: اوه چه ها دو فرانسه یعنی اروپا فرانسه نعمت از اروپا داشی نفرمزد چین اون طرفه آمریکا این طرفه ما هم جدا زله سومیم ما رو تو بغل آمریکا نبینید حرفش این بود گفتن عجب که اینطور بر وين این چه ولی سر فرانسه بودن یه پلیس به یه جو... نوجوان 17 ساله تو ماشین شلیک کرد کشتش یک ماه تمام فرانسه با آتش کشید مکسون چون غلط کردم فیتلا کشتم پایین تو تو فوش بچین داد. بعد پایین تو فکر نکنی. ما مردم متوجه نیستیم مثلا ماجرای مثلا تو ایران افتاد سر ماجرای خانم امینی رو تو چی تا تو چه کانtekstی شما تحلیل میکنی فقط تل... ماجر حجاب الان ببین بریکس اومده رونمایی که از ارزش تازه فعلا رونمایی کرده گفتم وایس ببین چیکارتون کنه. تو ارز 5 روز 6 تا فیلمو پرن اومده ببین تو کرد یکی لخ شده یکی بندری داره می رخصو یکی نمی چکار داره میکنه همه همزمان یا رو چی سوار میشه زخم هست که مگس می نشیند بله من نافیه نیستم که اینا که داریم میگیم گسل ها وجود دارد گسل قومیتی در فرانسه وجود دارد مهاجران مسئله هستند هجاب در اینجا مسئله هست اما چی میشه یوهوی؟ رادیکال میشه ماجرا چی میشه ماجرا اینجور رادیکال میشه خب فردا اگه من و شما تحلیل درست نداشته باشیم یه کنجی واسه خودم تو خواب و خیالی شروری واسه خودم سرهم میکنیم بعد فکر میکنیم این تصمیه درسته خب نیست بشناسیم بدونیم تصمیه و واقعیت چی بوده بعد شما میفکر بکنیم ما آزه حالا یه خاکی تو سرمون میکنیم <تصفيق> و یه بحث دیگه است اینا قابل جمعه اینها قابل جمعه ونزوئلا رو چه حسابی ریخ به همین همه همه شبابتش اینا فدمت شما عرض بکنم مطلب دارم کار کردم وقت گذاشتم عمرم رو گذاشتم والا پیشبینی های ما به تحقق معروفه یعنی ما علم قیب که نداریم که جادو جنبل که بلد نیستیم رجالالالغیب هم نیستیم رو ها رو اگه شما تحلیل یعنی شما تردید نکنید اصلا دلیل اصلی که قذافی در لیبی کنار گذاشته شد بود یه آفر بود این بدبخت تا تو اتحادیه آفریقا گفت بیاید ما ارز مشترک داشته باشیم همین بقیه بحانه است قذافی قبلش هم همون آدم بود بعدش هم همون آدم یوهایی دکتاتور شد آنه اقل نداریم صدام قبلش نمیدونستن چه یوهایی به نجده برزنش به بیرون صدام سالها بود دیگه نفت برا بر غذا داش اجرا شد نفتشو میگرفتنمش فقط غذا و دارو میدادن یوهای سلاح کشتار جمعی گفتم بریم پیدا کنیم تو ها خب حالا یه میلیونم کشید تو دارو کشتار جمعی پیدا کردید کوفتم پیدا نکردن چی شد ها شما فکر می هست فکر می کردی هست چرا چون صدام تو اتحادیه عرب پیشنهاد داد ارذ عربی مشترک و وقتی میخواد مثلا دلار رو بذاری کنار باید همش نگاه می‌کنن تو این کانتکست تو این فضا تو این اتمسفر در این بستر تحلیل میکنید تحلیل کنید واقعا برای دنیا دارن زندگی می‌کنن یا اعتقادی به آخرت که نداره که همه چیز این دنیاست تحلیلش اقتصادیه منافع. شما اگه ساختار این منافع گروه رو نبینید تحلیل زین آن نتونی بکنی با چکار کنید نمیدید چیز باید تصمیم همین الان ما مثلا یه حالی به عربستان بدیم چین سه داشتر بد قیمت نفت رو بریم بالا چین سه داشتر کشور دوست و برادر بعد وایس دیم اون طرف مثلا همین الانه سر ترامب روس دوست دارن ترامپ یا سر کار عربا دوست دارن ترامپ یا سر کار دوست دارن ترکیه قضاقستان برو تا از جمره آذرباجین تا قضاقستان ترامپ یا سر کار چینیا دوست ندارن ترامپ یا سر کار ایران دوست نداره ترامپ یا سر کار قبول بعضی از این با هم نزدیک هم هستن اینجا یهو یک تو شما درست نه تونه تحلیل بکنه همون رفیق و میشه دشمنت. حداقلش اقلش این دیگه تا نمیده حد این تو سازمان من منتظری یه رعی بده رعی رو نمیده حداقلش اقلش ممکنه سر تا جزیره یه خاص بکنه نه ما الان باید بگیم ال کنیم بل کنیم بجنگیم نه جنگیم نه رو حساب کتاب باید باشه دیگه همه هر زمان اینه. خب اینو باز کنم میگونی رسطانم الان خاصی خب محضر شما عرض بکنم چین اگر بخواهد بذارید قبلش یکم توضیح بدم 80 درصد تجارت دنیا از چه طریقی انجام میشه؟ بار دریا دریا امنیتش دسته کیه؟ غرب 400 سال بر تنگه ها اونها مسلط 400 سال از زمان هلند پرتغال پرتغال هلند انگلیس آمریکا به همین ترتیب بوده هر بوده از آنگلوساکسونا بوده و راه زمینی برای اینا یعنی تمام شدن اینا بسیار بسیار ما. چین داره چی کار میکنه تره بی آر آی داره اجرام میکنه وان رود وان بلت یک جاده یک کمربند چین اومد چیکار کار کرد گفت یه راه ببینید چین افغانستان ایران این عادی ترین را درست ترین قدیمی ترین را همین بیاد بره تا از ترکیه یا از قفقاز بره تو اروپا خب این راه قدیمی جاده عبریشم و بیاد عراق بره امین بود اینجا چند راه میشده میواد پایین یا یعنی به بغداد میرفتن این از اون وقت ابریشم میآوردن از من ادویه میداد هندیه این بوده همه چی توی ایران ایران بارانداز ایران بوده یعنی خود تاجر چینی تا بغداد نمیرفته تاجر ایرانی میرفته از چین میآورده ایران میداده به تاجر بعدی اون میبرده به بغداد اون میبرده به ترکیه یعنی تجار ایرانی همه کاره بودن اینا اینا بشه نه ندا داشته باشین فکر به ندرت بوده که یه نفر از اونور برنش بره چون حوزا تخصصی بوده و زبان رو میدونستی اینجا با ایران بوده همین کارون سرهایی که تو مسیر می بیننید قدیمیه مخصوصا جاده مشت که دارید میری دست راستتون با فاصله هزار متر تر خب یه جاده خاکی اون جاده یش قدیم بوده حال اتفاق افتاد امریکا و افغانستان ریختن به هم. مگه آمریکا نرف افغانستان که حکومت دست طالبان بگیره سوال مگه جواب نیست واقعا همین بوده دیگه آمریکا کلی چیز آ اینا آدمکش آدم خورن اینا تالبانی یا فلان هم. ما ببینیم افغانستان دست این رو دربییم مردم ظلم نکنن درسته خب چرا بعد 20 سال دستی تقدیم کرد به طالبان او بیرون؟ یک سال اول سوال دو چرا 80 میلیارد دلار سلاحو به افغانستان داد و برگشت؟ چرا سلاحاش خارج نکرد قبل برگشتن؟ 80 میلیارد دلار اسلحه هر گذاشت دست طالبان اومد بیرون. چرا؟ میداد به پاکستان آمریکایی. خارج میکرد اگرم خواست خارج کنم میداد به پاکستان. چه برنامه‌ای برای افغانستان چیتو بود؟ این منطقه شرق ایران یعنی فاصله بین ایران تا چین باید تبدیل بشه به سیاه چاله سیاه چاله ای که تمام تروریست ها رو ببلعه در اونجا بیان باهم هم تاجیک‌ها که در این منطقه هستن نسبت به تاجیک های افغانستان افغانستان چند تا قومیت مهم داره هزاره ها تاجیک ها پشتون ها و ازبک ها ازبک ها تاجیه ها هزارها زبانان هزاره ها زبانن فارس مذهبن شیعن، نژادن آره، آلتایی محسوب میشن. خب که این منطقه میشه. مرز بین قزاقستان و چین. بعد خدمت شما آرز بشم که پشتون ها به زبان پشتونی صحبت میکنن. تقریبا 400 سال در افغانستان هر کی سر کار اومده پشتون بوده چه حامد کرزای آمریکایی و اشرف غنی آمریکایی چه طالبان ضد آمریکایی انگار که حکومت مال پشتوناست خیلی هم ظلم میکنن به بقیه اقوام این نبوده به محض اینام که اومدن شوری که از روی پول افغانستان عبارت فارسی رو اسلحه کردن از روی سردر دانشگاه اسلحه کردن مرضشون رو ریختن خب اینجا یه جنگی در میگیره پسر احمد شما مسعود احمد مسعود دایداره میگه به تاجیک ها داره ظلم میشه خب جمهوره اسلامی ایران مذهبی با هزاره هاست. فرهنگی با تاجیک هاست ها افغانستان همسایه ما صد سال پیش با هم یه کشور بودیم خب این کار سخته برنامه چی بود؟ برنامه این بود که اشرفغنی امریکایی قبل از رفتنش جنگ داخلی رو راه بندازه شیعیان رو بیاره پشت خودش یعنی پشتونای های امریکایی تاجیکها و هزاره یتیم خدمتشان های پشتون های طالبان که خیلی جنگ آزمودن سال ها جنگیدن اینا هم یتیم یک جنگ داخلی راه بیفته خب آقای چین از اینجا که نمیتونی رد کنی چین اومده با جاده زمینی وان رود وان بیلٹ یک جاده کمربند داره راه دریایی رو دور می‌زنه اون عدد 80 درصد می‌خواد بیاره این طرف می‌خوان راه آهن بکشن گُر رو گُر آقا قطارهایی که طول بعضی از این با واگناش اون وسط چند تا لوکوموتیو داره قطارهایی که به 6 کیلومتر میرسه <تویلت> طوله یه قطار 6 کیلومتر 7 کلومت یعنی چی؟ مثلا خارج از تصوره اینجوری میخواستن بار انتقال بدن خب افغانستان کریخ به هم دقیقا همزمان بین این بقیه کشورهای آسیای میانم درگیری های روخ روسیه هم که با اوکران وارد جنگ شد خب کجا ببری تو دیگه؟ خب همون دریایی رو چیکار بکنیم؟ پاکستان چون هند و چین با هم دیگه رقابت دارن شدید پاکستان به هند هم با هم دشمنن هم دیگه میدونید همیشه اختلافات مرزی دارن سر کشمی رو هم می جنگن پاکستان به چین نزدیک شد؟ چین گفت من 6 میلیارد دلار پول میارم اینجا سرمایه گذاری میکنم از طریق پاکستان از این بالا میکشون هم میرم پایین بم کلاهمو صادر کنم. هند داره تجهیز میشه از نظر نظامی حتی در این دوتا جزیره آنزمان و نیکوبر این اسم فارسیه ها نیکوبر یعنی ساحل خوب اینا رو سیاه های ایرانی است بزاشتن نورد ایرانی است گذاشتن وقتی می رفتن دریانورده مال ما ایرانی بوده فنونی داشتیم که کشتی جوری بلد بودیم بسازیم که تو باد مخالف میتونست حرکت کنه بازن اینا مهم بود اینجا رو الان آوردن چگاه کردن نیروی نظامی مستقر کردن پیمان نظامی الان هند یکی از بزرگترین وارد کنند کنندهای تسلیحات از اسرائیل دارن این برای ترچیز میکنن که بتونن جلوی چین قرار چین باید از از اینجا رد اینجا هم که دعواست الا ماشاءالله که از تنگه مالاگا رد نشه اینا اومدن چینیا می‌خوان یک کانال بزنن کانال تایکرا نصف بکنن اینا از وسط اونجا رد که نیازی به این تنگه نباشه آقا این اتفاق افتادن همونا تایلند کودتای نظامی شد ریخت بهم. ببین هم. من یه تحلیل دارم به شما میدم که خیلی از اتفاقات دنیا رو میتونی تو اون بذاری میگه آها این اینجا قرار میگیره آها این پس این بود دلش چی بود برای چی نظامیشون دیوونه بودن این کودتا کردن نمیگذره هنگ کنگ رو هم. هنگ کنگ یعنی چی یعنی چین جنوبی تو از اینجا میخوای بری آشوب شد یک سال بعد عراق ریخ به هم که بهتون توضیح دادم بعد هاج قاسم شهید شد سال بعد با ابو مهدی مهندس رو زدن اون برای چی بود؟ برای این تر این یکی از مهمترین ترهای ایناست کانال خدمت شما ارز بکنم عرب مید من برای تون این میتونم پیدا کنم شما خطرناکی دیارم چیزی چیز کردیم گردیم قبلش میتونم دوره خب حالا میچین نگاه کنید که از هند بیاد به این سمت بیاد به امارات بعد خدمت شما عرض بکنم و از حیفا پخش بشه به کل اروپا این عکس اکسه خوبیه. خوب نشون میده. برای این اتفاق کشورهای عربی باید با اسرائیل رفیق میشدن. تره چی؟ باریکالله. تره ابراهیم یا معامله قر خب برای این که این اتفاق بیفته یه نفر است که نخواهد گذاشت. که؟ نه ایران. سردار سلیمانی باید حسر مثل اینکه میخوایم خوام بیام افغانستانو بگیریم 11 سپتامبر یه نفر از نخواهد گذاشت احمد شماست مسعود حذف میشه دو هفته قبلش نه مهم این زمانها من الان برام یقینی نیست ایرانو در داخل میخوان بریزن به هم دوباره برای چی بخواد اینکه همزمان با این اتفاقات یهو دوباره این بحث بچه شام مطرح شده که آو اینو میگم من خلع میام میام برکنم خلعشو میخواد برکنم این توالی زمانها مهم است برای تحلیلگر گر. نه وقت دشمن داریم کنیم تازه ماها به اطلاعات مهرمانه دسترسی نداریم به مذاکرات پنهان دسترسی نداریم خیلی کار ماها سخت خدا شده. باید بشیریم رو همین اتفاقات رو همین مسائل بمینا رو مرور بکنیم خب معامله قرن پس ایران مخالف اصلی است نخواهد گذاشت ما باید ایران رو درگیر کنیم مشغول کنیم حاج قاسم زده میشه و سال بعدش قصه خانم امینی پیش میاد و عملا کشور میریم توی درگیری هایی که یک شکاف اجتماعی سنگین به وجود می که فامیل به فامیل فوش میده این علای اون استوری میذاره تو دل خانواده بین خوهر بردر دوا میشه روی گسلی هم دست میذارن که چیه؟ پابلیکه میگن چی؟ یعنی خیلی عمومیه الان میگن آه این نمیدن مثلا گوشای آیفون قرار ریجیستری شدن فیلان به همان میگه این چند درصد دقدق اجامه است. یا میگه میگه که آقا مثلا بنزین هواپیما ها رو میخوان گرون کنن میگه کلن یه درصد مردم رو میرن سه هواپیما میشن متوجهید؟ اون یه درصد درست درسته پول داران درسته اون یه درصد رسانه داران درسته داده بیدادوشون بلنده اما دقدقی حقیقی کف جامعه نیست بنزینی که اگه دست بزنید دقدقی واقعی جامعه خوب، خب اینه یعنی چی؟ نفوذ این که من بتونم تو تصمیم سازی شما دست ببرم تو دستگاه محاسباتی شما دست ببرم بتونم جای اهم و مهم رو عوض کنم. جای ده و 6 رو عوض بکنم. جای چار و منفی سه رو عوض کنم. نمیگم عدد وجود ندارد. جاهاش رو عوض میکنم. آدم های نخاله رو میکشم بالا. آدم خوبو خوب میارم پایین. آدم های حذف میکنم. جریان رسانه. امروز بین دشمن هر کی داره میزنه اون یه جایی داره به اونا فشار میاره. اگر شما هم تحلیل شدید با دشمن برید به خودم فکر کنید بگید چی شده کجای سیستم محاسباتی من ریخته به هم اصلا کاری هم ندارم اینه چون این آدم پسر خاله مام نیستن فکر وامیل مام نیستن چرا باید این اتفاق بیفته الان امسال بعد از یک سال نیتانیه دوباره در سازمان ملل این نفع دو تا اکس بالا همین نقاشیش دوباره دستش بود این طرف محور شرارت آورد کرست نفرین شده منفور ایران عراق، سوریه لبنان یمن دقیقا همونه که دارم قضیده فاهم کن اون طرف بلست، برکت یافته مبارک که ها رو گذاشت همین رو همینه که اینجا. زردن این سال بعدشه. او چرا باید غزر با خاک اکسان بکنه؟ به خاطر اینکه با یه راکت میشه این رو فاتح خون. او قبلش میخواد اونجا رو صاف کنه تا خیالش راحت حزب الله رو باید ببره بالای رودخانه لیتانی. یعنی اینجا که مرزه این رودخانه این شکلیه بره بالا رودخانه اینجای که اینجایی که کوهستانیه و محل نگهداری تسلیحات حزب الله رو خیالش راحت بشه با خاک اکسان کنه بفرستش بالا قطنامه بیاد اجراب کنه اینجا رو بده دست از یو سازمان ملل خیالش راحت بشه به خاطر چی؟ به خاطر که بندر حیفا زیر موشکای و پهبادای حزب الله لبنانه عللم که هر روز داره لبنان اینجا داره میرم جرمیزه خب من گفتم خیلی نا زو ابعاد ها جامعه اطراف این تحلیل ها اینقدر من بخواید اصلا فقط تحلیل دینی راجب این کنم من دوست دارم اینجا تحلیل اقتصادی کنم یه خورده شما بشکن این ساختاری ذهنی یه خورده باستر ببینید فزور خب یه سری ماجرا هنده مگه میشه هند همینطور علکی باشه آقای مودی ناندرا مودی 13 سال سر نخست وزیره سر استاندار ایالت گجرات بوده اینا گجراتین مثل الان دیدین نیست امپراتوری دست مشادیاس با اومدن ایشون ها قدرت گرفتن ایشون دو تا بینه که آدم زده مسلمان معروف به قاتل مسلمان ها در گجرات کلی مسلمان کشت در زمان, در زمان ریاست این بر استان و ایالت حزبش بی جی پی کیا میرسید به دو نفر که یکی هم باز و رحل گجرات آدانی گوتام آدانی این گوتام آدانی که هیچ دو داشت هم چند سال پیش دومه فرسرادمند کل جهان بود جایلان ماس بود یه هندی بل خانوادگی تجارت الماس و آمبانی این چی این مال بنبعی اما بزرگترین شرکتش توی گجرات اینا حمایت کردن از این حزب از مودی و مودی شد رئیس جمهور رئیس دولت شد اتفاقی که افتاده میگن آقا این نقش داشته نداشته سال 2006 بود به عنوان سروزی ایالات گجرات رفت اسرائیل دقیقاً در جنگ 33 روزه و اون موقع موزه گیری کرد به نفع اسرائیل تو جنگ 33 روزه که همه دنیا به نفع لبنانیام صلحان موزه گیری میکرد 2017 وقتی رفت اسرائیل در فرودگاه بنگوریان خود نتانیاهو رفت استقبالش و یه سخنرانی خاص براش کرد و گفت ما هفتاد سال منتظر تو بود ما هفتاد سال منتظر اتفاق بودیم تو سمره هفتاد سال سرمایه گذاری مایی چرا؟ دقیقاً شهست سال هفتاد سال پیش در سی و چه، میلادی رئیس جمهور اسرائیل به واسطه یک زن زن یهودی که ازدواج کرد با تاجرای الماس در هند پای هندی ها به شهر آنتروب باز شد شهر الماس تجارت علماس. آرام آرام 60 درصد بازار اونجا افتاد دست داریم. و آقای یعنی یک ارتباطات خانوادگی بین مودی‌ها ها و آدانی ها و خیلی از اینها های دوگانه دارن یعنی تابعیت حداقل این سه تا که بین سه کشور هند انگلیس وقت چهارت کشفت هند، انگلیس، بلژیک، اسرائیل خیلی هاشون تابعت دوگانه هند اسرائیلی دارن ما هفته اشتر زارت هم چیز داریم یه اقلیت یهودی داریم در هند زندگی می کنم و خیلی توپه دو کنم تجارت سنگ و علماس و این کارا قرداد های نظامی آنچنانی که به نها هست بکنان ارتباطی که اماراتیا با مودی هم دارن همین جوریه یعنی یک کاری ترزی شده اومده جلو امروز میخوان سمره رو به شما ریختی به همه مجال رو هفته اکتبر خیلی اتفاق مهمی بوده. فلسطین چرا این کار کردن؟ برید سخنرانی بایدن رو نگاه کنیم بایدن میگه اگر هفت اکتبر اتفاق نه بود دو ماه دیگه تمام بود همه چی ما عادی سازی بین اسرائیل و عرب ها رو اعلام میخواستیم بکنیم میخواستیم جشن بگیریم و با حذف فلسطین با حصف پروژه دو دولت یعنی تن داده فلسطین آقا اسرائیل هم باشه ما هم باشیم دو دو دولت بشین به همین هم تن ندادن و فلسطینی همین های ساله الاروری که 7 روز بعد از 7 اکتبر در لبنان به شهاده رسوندنش رابط حماس با حزب الله بود این مصاحبه داره زمان, زمان. میگه اگر بخواید ما رو حصف بکنید ما بازیتون رو با آتیش میکشیم یعنی فلسطینیا مثل یحیاس انوار این آگاهانه این ترهو به هم ریختن گفتن نمیذاریم عادی آدیسازی رو انجام بدید الان آدیسازی برای کشورهای عربی دیگه سمه مقلک هیچ کس نداره کدوم اسرائیلی یعنی الان جرعت این کشور عربی سفر کنه برای چی بقید جنایت کردن مردم تیکه بارشو میکنن شما دیدید کشتی اسرائیلی از کانال سویز رچا چه سر و صدای درست کرد ریختن مردم گوشت دادن یا مردم ترکیه حمله کردن به کشتی اسرائیلی که پهلوی گرفته در ساحل اجناسش دارن آتیش میزنن سنگ میزنن تو یعنی اون کسی بره سمت اینا رعی دست عدست داده حزینه ها برشون میاد تو این کانسیکس باید شما حتما بتونید تحلیل بکنید و الا کلاتون پس محرکه است ادامه ماجرا چیه؟ ادامه ماجرا برادر من ازیز من اینه که اینه گفتم ما از تر عادی سازی کتاه مرگ یه بار شیبن یه بار یک بار برای همیشه باید کار محور مقاومت رو اکثره کنیم یعنی باید غذر رو کنیم لبلان رو اکثره کنیم بعدش سوریه و بعد ایران این همه میگن سر مار سر اختاپوس فلان یعنی ایرا باید بایستیم دونه دونه این کار انجام بدیم نه تو امان الان در لبنان به واسطه سفارت آلمان به خاطر این بلبشوی که اتفاق افتاده آلمانی ها شدیدن دارن آدم میخرن و میخوان لبنان رو از داخل بریزن به هم. لبنان از قدیم تحت نفوذ فرانسه بوده. یعنی اروپایی ها توش دست دارن. سوریه رو ترکیه ها رو انداختن جلو. ترکیه رفته از اوکراین. اوپراتور های پهباده انتحاری برداشته برده. در دسترس این تروریست ها قرار داده میگه و دارن حمله میکنن به تجمعات ارتش سوریه. حتما برای ایران و عرقان و به محض که اتفاق بیفته طرح دوبوم اجرا میشه بریم برگردیم رو نقشه آه. این طرح کوریدور میانیه این اون عکسی که من نشون داده بودم این قدیمیه این میگفتش که چین از چه طروقی میتواند با دنیای بیرون ارتباط داشته بشه تمام این کشورها ریخ به هم بلا استثنا مغولستان به خاطر زغال سنگ انقلاب شد شلوغ شد در یه چین جنوبی که توضیح دادم خدمتون روسیه رو که میدونید پاکستان رو که دیدید عمران خان چه کارش کردن ج ریخ به هم افغانستان ایران که مستحذرید همه رو ریختن به هم نمیذاریم تو نفس بگیش بزرگترین دشمن در درجه اول که چین از نظر اقتصادی سیاسی چین چون چین اول قدرت میخواد بشه از نظر چین روسیه ایران این ترتیب صدو کشوره و اهمیت دشمنی برای امریکا و غرب از نظر نظامی روسیه اوله جاشون عوض میشه باز هم همیشه تو کشور از نظر ایدئولوژیک ایران ایران ایران میگن دوتا هیچی ندارن هیچ تهدید ایدئولوژیک نیست اینا تهدید ایدئولوژیک اند نگاه کنید کل دنیا تنها کسایی که داره فلسطینمات میکنه همینا یعنی هر کسی که ربطی داره به ایران عراق لبنان یمن باشش وششت ایران، باشش تو ای اینا همه ایدولوژی تئوری. توری. <سؤال> کوریدون میانی چی میگه؟ که عملا دیگه بدونید که حتی ها دیگه تقریباً کم آوردن تو این ماجرا چون از ایرانی‌ها که پالسی نمیگیرن شوت و شوتو شنگن دیگه کسی میینه بنش بشینه و اینو حرف بزنه که خب بره بشینه با اینو حرف بزنه درست تصمیم بگیره. میگن ایرانو حس فکنید. کدوم آدم عاقلی از دریا چیز عبور میده؟ رو پیاده کن اونجا دوباره سوار کشتی کن رد کن اون طرف دوباره چگاه کن خوبی بیا از همین الانجاست ایران زمینی برید میگن نه ما نمیخوایم بری زیر بلیط ایران توی چین میخوای صادرات انجام بدی آفرین یا میای با این کشور این کشورات چن اینا همه کشورهای ترک زبانه ترکیشون هم هیچ ربطی به هم ندونن یعنی شما نه با هم دیگه میشینن دور هم حرف میزنن از ترکیه همهشون هم چیز دارن مترجم دارن دیگه ما, ما متوجه نمیشیم میشیم, میشیم. گوشون نمیفهمین قضا هستانو چی, چی میگن اون لالوای یا یک کلمه به بز... گوشت آشنا میاد اینجوری همونقدر که مثلا زبانهای هندوروپایی مثلا به هم نزدیکن آره چه میدونم مادر مادر فادر پدر برادر برادر دختر دختر, دختر، دوتر دتر نه همش یه ریش هستی زبان هندو رو پایی حالا من میفهمم مثلا آلمانی ما میفهم که جلومون حرف بزنه حالا خود مثلا بیشتر و نکته دیگه هم باز اینه که اینجا تقریبا 100 سال دوستان کار فرهنگی صورت گرفته یعنی چی؟ اینایت داشته باشید انگلیس آمد اینجا را ساخت هویت ترکی تزریق کرد برای چی؟ برای اینکه روسیه نتواند بگ آب‌های گرم خلیج فارس برسد. وصیت پتر کبیر این بود که اگر می خواهید روسیه رو نجات پیدا بکنید، ما از تو آب‌های سرد بد خارج شیم. ما به آب‌های گرم خلیج فارس، برای همین ایران برای روسا مهم بود. بیایید اینجا، راه در روی ما اینجاست. راه فرار ما اینجاست. اون‌ها هم فهمیده بودن، برای همین اومده بودن تو ایران مستقر شده بودن. انگلیس اومده بود کجا؟ جنوب ایران. روسیه شمال ایران گفت شمال ایران می‌خواد به آبها نمی‌ذارم برسی تو جزایر کشتی آورده بود آدم آورده بود گفت من نمی‌ذارم به خلیج فارس برسه از قدیم این بوده اومدن روی هویت ترکی کار کردن گفتن ما یه هویت مشترک داشتیم شروع کردن فن چرت و پرت خیلی هاش مزخرفات همین الان مثلا مشاور اصلی آقای علیف خانم اسرائیلی به اسم برندا شفر برید فقط تو توییتر، تویتای این بخونید فضا دستتون میاد هیچ چی دیگه من نخواستم تحقیق بیجیه تر مقالاتوشو که داباشو کاراشو سفرهاشو نمیرم چونه هم توییترشو بخونید میفهمید اومدن کار کردن خب آقا شما میخواد کشور بصلا تورک رد بشید خب اینجا بیادین تیکرم ات توی شمال ایران ات توی آزرباجین که تورک هم رد شد این قصه ها چیه؟ نه. اینجا یه مسئله ای هست دقت کنید روس ها متوجه این نقشه انگلیس ها شده بودن برای همین اومدن جهان ترک رو دوپارچه پارچه کردن از طریق کیا آفن ارمنی ها روس ها اومدن رو اون مسئله کار کردن چون میدونستن از اینجا میخوان تنفسشون رو راهشون خ... کنن الان روسیه درگیر اوکراینه <تصفح> تمرکزش برداشته شده از قفقاز دارن کار یه سر میکنن یک تیکیار این تصویر تصویر خوبی نیست که کوریدور زنگزور رو هم من به بخوام نشون بدم بذارم جای داریم زنگزور رو نشون بده میانی که فقط الان 20 کیلومترش بونده خوب این تصویر خوبیه ببینید این جمهوری آزربایجانه این رنگ نمیرم سبز بگیم چی بگم بگیم بعد این تیکه نقش جوان جدا افتاده این ایران این این کوچولو رو این یه تیکه جا رو رضا داد به ترک و ترکیه تا نقش جوان وست شد این دست ما بود مال ما بود اون موقع اون سال پیش یه انگلیسی این ور سر کار انگلیسی انگلیسی‌ها یه رزاخانی خان این ور سر کار آوردن انگلیسی‌ها اون طرفم آتاتورک سر کار آوردن این دوتا به هم دیگه بستن او نمیگه والا یه تیکه اون تا اون کوها به چه درد مخوره من بدم بره انگلیس با هم چپ نیفته تا اینجا وست شد الان اگر این به آذربایجان جان بچسبه تمامه از ترکیه اوز ناتو تا قزاقستان اینا وست شدن اینجا دیگه کار نظامی شده دیگه کار به توپ و تان کنید فهمیده ما ای ایران داریم مقابله میکنیم تا قبلش خواب بودیم یعنی تا گلدروش نشه کار سفت و سخت نشه ما به خودمون نمیایم. اصل مسئله زور اینه. یعنی رابطه ما با افغانستان چیه؟ ایران و چین و این سه تا اصلی. با این اتفاق ایران و با رکشالا تاموش شد. برای این اصلا تنفس ما اصلا راجع به 100 سال آینده یعنی سال آینده کشور داریم اینا دونه دونه عضو ناتو خواهند شد. چی فکر کردی چون؟ تک تک عضو ناتو شد. همین جمهوری آذربایجان اون طرف ترکمنستان الان تو آسیای میانه که اصلا روزه آسیای مینا رو براتون نخونم که اصلا باید خون گری کرد حرفای دمد جمهوری آذربایجان ما میزدیم کسی جدی نمی گرفت به شوخی گرفتن امروز تو تاجیکستانه تاجیکستان به حدی ایرانی بود زمانی که نه شوروی جدا شدن بچا تا شش ما یک سال کانال یک ما رو انداخته دادن به خودشون یعنی فکر کنم اخبار آباب آب تبریز رو میدونن میشنیدن هیچ گفتن ایران روسها رو باید بذاریم کنار تا این حد برید ببین الان چی شده الان انقدر فضا رو تو دست خودشون اسرائیل ها دیدن که با کمک ترکیه ها دارن مدارس زبان ترکی میذارن تو تاجیکستان تو تاجیکستان سراغ هزاره های افغانستانی فارسی زبان رفتن گفتن شما زبانتون فارسیه نجادن ترکید باید دوباره برگردید به اون اصل خودتون میلی عجیبه نادران اینجور کار میکنن ما موجود. پس چین اینطور اینجام از ترکیه تا مرز چین فاصله افتاد یعنی اینطور این ستا شکستن بشکنن با هر کدوم باید درگیری یه روسیه با اوکراین درگیر میشی با اتحادی اروپا با ناتو درگیر میشی با نک پیکان اوکراین ایران با کشورهای عربی منطقه درگیر میشه، با نک پیکان اسرائیل و چین با پیمانهای نظامی این دو پاسیفیک این چیه؟ الان دارن مانور مشترک بین فیلیپینو، استرالیا و کره و ژاپن و تایوان و همین تایوانی که شما مسخرش میکنید میگه چی اس حالا تایوان در آستانه اتمی شدنه. یعنی بعضی میگن بمب اتم هم داره پنهانی، نخواست خاص علنی کنه به خاطر اینکه چون می‌خواد از ما شتابی کنه، گفتن اگه این کار بکنیم ما حمله می‌کنیم، نمی‌دونن فلان. خوب که کاراشون انجام دادن، خوب که کاراشون انجام دادن. بعد وارد میشم. یکی از شرکت هایی که الان میدونی که ریس پردازنده تولید میکنه چشم در تایوان چین جورت حمله نداره. چون موتور خودش میتپاین خودش وارد کننده هست نه خودتون نمی پرسی چرا آوردن تایوان اونجا بیخ گوش چین توانمند کردن امریکایی تو این حوزه یا بیخ گوش ما اماراتو الان میگه به امارات حمله کنیم بکنیم 80 درصد کالات از امارات وارد می حمله کن 80 90 درصد ارز تو به درهم گره خورده برو اینا تره های کلانه داره صورت میگیره راه هست بله حالا همین ان بندر حیفا رو می بینید دوستان اینجا تمام و کمال در اختیار خانواده آقای آدانی قرار گرفته. نتانیاو کل بندر رو نه یک و خورده میلیارد دلار داد به آدانی. پس الان تو بزنی به حیفا به کی موشک زدی؟ به هند؟ به مودی. چیزی نیست ثروت آقای آدانی. هنگام آمدن مودی 7.8 میلیارد دلار بود. همیشه 4 سال پیش اون دعواش برات مورد پیش اومد رسید به 150 میلیارد دلار. نقشی نداشت آقای مودی بنده خدا. <تصفيق> تمام دور تا دور هند اینا همه بندره. تمام اینا بندره. همه اینا در اختیار خانواده آدانی. همش و جالب برید تو اخبار سرچ کنید 1400 شرکت آقای آدانی کمپانی هولدینگ آدانی اعلام کرده اجازه پهلوگیری شرکت های ایرانی را به بنادر نخواهم داد دوست دارم شرکت خصوصی هم دوست ندارم اینه بیار. چرا؟ از افغانستان یه باری آورده بودن اینجا کشتی ایران آمده پهلوگیری تو اون باره مواد مخدر بوده بهانه این بود تراحی تراحی اسرائیلیه بعد بینیم مثلا رئیس سازمان بنادر رانی ما بنده خود ما آقا این نیست این تو تا از این فلانه بنده خود تو خبر داری چی چی چیه مثلا تو تو بازی بزرگتری هستی حالا یه نکته چین و هند که تو شیکم همه و هند اینجوری با اسرائیله ما آمدیم بندر چابه دادیم به هندیا این وسط میشه پرتغال فروش ما ما نشون بدید ایبی نداره میخوای اینو بدی بگی نه شرقی نه غربی من بنادر خودم میخوام محکم بکنم از این بر بفرستم برای آسیای میانه باریک الله باشه فقط بفهم که این بندر چابه هارتو تو پازله دیگه وقت تو داری زحمت میکشی تو بازار دشمن نباش بعد اینم هم فضا رو همینجوری چیز ببینید اقتصادی ببینید شهر نعوم تو همون کریدور تعریف شده شهر نئوم در موردش میدونید دیگه 500 میلیارد دلار این سازه ها رو میبینید اینا کار دست بشره. یه ساختمون دراز همینجا چند کیلومتری قرارو نمیدونم گارسنش ربات باشن و شهر هوشمند و اسمارت و نمیدونم لبه دریا و این همه چیش ببینید الان شروع کرده ساخت و سازش 500 میلیارد دلار اینجا 500 میلیارد دلار خود این کریدوره 500 میلیارد دلار 500 میلیارد دلار منابع گازی مردم غزه است. اینجا. اینجاست که نوار غزه است. اینجا 500 میلیارد دلار تخمین انگلیسی‌هاست که گاز کش شده. تا الانش 1500 میلیارد دلار کی می‌زنه این؟ قرار بود این در حبر انقلاب توی نماز جمعه معروف نکته مهم میگو اینا میخوان اسرائیل تبدیل کنن به هاب کالا درست قرار از اینجا تکنولوژی، هوش مصنوعی، چه چه چه چه همه این اتفاق، انرژی صادر بشه، کالا وارد بشه، کالا صادر بشه شما میدونید شمال فلسطین اشغالی یعنی از همین حیفاب بالا هشتاد درصد شرکت های حوزه تکنولوژی و تکنولوژی پیشرفته رفته سیلیکون ولی اسرائیل اینجا بود که الان یک سال آواره شدن اینا یعنی کی انجام داده؟ محور مقامد شما ما یک بار نشیدم تو این اخبار ما که میگه آه اشغالگران شهرک های شهرک نشینان شهست هزار نفر نظر آواره شدن چی چی میگی شرک نیشنن چی چی هن؟ فاته سیلیکون ولیشونو خوندی <تصفيق> شرکت هوش موزه حوش مصنوعی انرژی های پاک چه چه, چه همین خود همین آقای آدانه بودی یا حضور زهن ندارم سه میلیارد دلار تو این روحوزه انرژی های پاک سرمایه گذاری کرده هندی که زغال سنگ می سزونن. بزرگترین پالاشگاه جهان که روزی 600 هزار بشک نفت رو میتونه بکنه مال آنبانیه نه همه چیشونو رو چیده بودن از ده سال بیس سال قبل داشتن برنامه روزی میکردن روزی که میخواستن این میور رو بچینن نتانیان برست سازمان ملل بگه دو ماه بعدش کار تموم بشه هفت وکتر مثل طوفانی توفانی من همه چی ریخ و الان پس تصور این که درگیری با اسرائیل تمام بشه بذار کنار حداقل سه سال چهار سال اینا ادامه پیدا اسرائیل برای وجودش داره می جنگه. برای بودنش وگرنه تمامه دقیقا ما باید هم باید همینجوری به اسرائیل نگاه کنیم و اینجوری به جنگیم. و مردم توجیه کنیم که نه اینکه هلا یکی لخ شد تو دانشگاه کل حواسا ها برون بر هوشمندانه هست این دفعه قبل نبود یارو تا میگرفتنش این برهنشون دفعه اول نی بود قبلا هم بوده شام بهشم بخشم میشه نه خیلی دیگه بولدشن چون تو دانشگاه بود من با این وناخوده کار ندارم اطلاعی هم ندارم هدفش چی بوده چی بوده میام میام بیمار روانی بوده نبود من اینا نمیدونم چون کی کی نی بیاد به آدم درست توضیح بده توی مملکت که یه رسانه‌ای که به توضیح بده همون اول بیاد بگه این آدم اینو اینو اینو قصه شینه تمام بشه بره اجازه تحلیل تخیلی میدن بعد اما بودن موارد قبلی که اینجور برهنه می شدن مصرف میکردن، بعد می گفتن حالا اون خوش نبود بعد اینکه کیسه پناهندگی می شن دونه دونه از اون سر در میارن، یا خانمه بود تو ماجرای دو سال پیش سال پیش توی چیز لخ شد تو هلن جدید نیه داخل خارج دانشگاه هاروارد هم دارن به در صد تعظیم می‌کنم به خاطر فلسطین. اینجا واسه تا... کسی نبود جواب بده. آ حراثت اینجوری گفته فلان دختره خودش توییتای ضد نظامش هم بود. ما گفت چرا و پرت نگیدین خود شروع کرد اومد با کلوسا فیلم گرفتن بعد یا فوش دادن فلان. جوری بهش حمله کردن. جوری بهش حمله کردن توییتش باکت. بعد بدبخت دیاکتیف که ترسید تهدید جانیش کردن توییتاشون هست. گفتن تیکه چیکارات میکنیم تو انقدر عقل نداری الان نباید بیا اینو بگی که رو باید به مردم برسونه به گوش مردم برسونه جواز طبیعی نه, نه همین وظیفه من برای شما چیه من تلویزیون رو گفت ما کار ندارم 100 تا دیگه من کار دارم میرم اونارو انجام میدم نگفت شده میرم دانشگاه به دانشگاه میچرخ یا می شما میام کاری هم ندارم دروم 10 نفر نشاستن 10000 نفر نشستن. این هدست من برمیدون دنیا باید حجت هم کنم با خودم میگم خدا من این کار دستم برمیدون حتما این آقایی که نمیگه این آرومد مردم حجت شرعی دارن حتما پاسخ دارن من اصلا دوست ندارم جای اونها باشم چون کارشون سخت این سخنان قبل اینجا آدم سیست <تصفيق> <تصفيق> خدمت شما ارز بکنم که در مورد اوکراین هم دوستان همینه اوکراین هم پشت کل جنگش مسئله اقتصادیه اصلش مال کار شرکت بلک راکه ماره لاریفینگ که تصمیم لی... لاریفینگ رئیس این شرکت یهودی یه صهیونیسته اونجا که اصلا واقعا از کره از آب کره گرفتن اگه تو سوالاتتون بود جواب میدم اگه سوالی چیزایی پاشیت بپرسید سعی edin تو موضوع باش که وقت بقیه گرفتنش در خدمتی بسم الله کره جمالی... <تصحق> شمالی چه نقشی دارد کره شمالی همین الان شما میدونید سرباز کره شمالی دارن تو کرمی جنگن راشن افتاد. اینا چه جوری بلند شدن سر از اونجا پیدا کردن؟ رابه. یعنی چین کره شمالی یه لولو خورخوره یه, یه دیوامه، استراتژی مدمن کار برده فراوان داره. من کوتاه میگم ها. این خودش یه جلسه از کره شمالی. دقیقا دقیقاً دشمن وقتی شما رو تونست محاسبه کنه، بسنجه دیگه ازت نمی‌ترسه. مثل یه رزمیکاری کاری که فن بلده. تو با چوبم بهش حمله کنی، او برای مقابل با چوبم راه بلده با چاقو هم مملک کنی راه بلده ما خیلی وقتی تو خیابون یه آدم تنومندو میبینیم فلان مثلا که ما بحثمون هم بشه از اون انقدر نمیترسیم که یه دیوونه میترسیم یه دیوونه این کجوکله هم هستا بنده خدا داره میاد از اون فروم چرا چون یه دیوونه است چون معلومه چیکار کنه خب ترامپ میگه ترامپ دیوانه خودشو دوستاش دیوونه نشون میده ببین خراب کاریش آقا این این دیوونهمون بود حاج قاسمتونو زاد ببخشید دیگه متوجه شدید مادامی که شما نتونی تو تحلیل کن ترام دیوونه نیست ترام خیلی تحلیلگر احترام کاسب تاجر تاجر که با دیوونه گیری میتونه پول در بیاره کی. زمانی که ما گلوبال هاوک زدیم ترام اومد گفت ممنون که اوپ ما بغلیش نزدید <تصحیح> <تصحیح> <تصحیح> یعنی میخوام باتون به بجنگم او کاسبه میشینه با خودش حساب کتاب میکنیم که خل اینا بجنگن عربستان خورد تنگه هرمز بسته شد امارات با خاک شد دیگه جنگ دیگه, دیگه شوخی نیست نفرف رو 300 دلار 400 دلار چه خاکی بعد تو سر ما می‌کنیم میشه 24 تا کنم یه ولش کن برای این استراتژی و راهبرد مدمن مرد دیوانه کاری که از رهبر انقلاب کرد در مغول استرالین بود استرالی شروع که حمجی کشتن بمبای سنگر شکن رو زمینو سروخ که می‌خواست برس به آسته زمین چی نشوندی گفت من قاطی کردم دیوانه شدم رهبرم گفت آ تو دیوانه نشدی تو خیلی هم محاسبهگری باباتم در میام جوابتم میام تازه میخوام بیام نماز جمعه روزش هم اعلام میکنم عقب ملت بیایم مسئولینم دعوت میکنم زودتر هم میام نمازم طولانی میخونم بعدش هم قشنگ میشنم، مصاحبت انجام میدم face تو face advice میستم بزن دیر میذنی مسئولینم میفرستم لبنان اول عراقچه رو میفرستم بعد رئیس مجلس قالیباف میفرستم بعد رئیس جمهورم میفرستم قطر زدی نزدی، بیا پایین یعنی متوقفش کرد این نمیفهمن مردم هم. او دوستش رو همیش فضا بره مثل که مثل داعش داعش رو با دو هزار نفر آدم گرفت، داعش داره میاد پونسد هزار نفر فرار کرد توف انداخته بودن اون دو نفر ها برده بود چرا؟ سر میبوره ها فلان میکنه ها او دوست داره اینجوره کره دار. شمالی برای این هم برای چینی ها و برای روسا این داره. یعنی ببین داره به آمریکا فاصله شو از اینور کره زمین میشه نبینید از اونور ببینید <تصفيق> آره یه جایی داریم این پسر دل دیوانه با... خودش هم دل دیونه میده دیگه موزه‌گیری هایی که میکنه کار عجیب. اصلا اخباری که شما در مورد چیز میشنوید چطوره در مورد کره شمالی آره عجیب غریب و نمیدونم زن آره فلاه اون الان پر, دی... پر روزه آزمایش موشکه آنچنانی انجام دادن و اینا همش هم زمانیاش اینا اتفاقی نیست چینی ها ازشون خواد. کره شما دور تا دورش دریاست در فقط از طریق چین راه داره. بیا. کره جنوبی که هیچی باشه. دشمنشه. خب. بعد اینا... افتوبرزه لزقونه لیتانی دوست داره آره این فقط چین ببینید این پایین که کره جنوبیه فقط چین راهی نداره این چه جوری تأمین میشه این قطعات از کجا داره بهش میرسه قطعات موشکی از کجا داره؟ چون داره چین اون مدمنش اینه آره ببین نگاه کن اگه فازو بخواد هستی مستی بکنی دیونه هستی میگه به بمب اینجوریه. پس این راهبرد برای اینه. دیگه بفهم. استاد اگر امضای شاسی شو چه نقش پادشاه اردن و اینکه پیشنهادی که به سوریه دادن که تسلیم بشی اینها، هم اگه چی صحبت شد. الان ماجرا اردن رو آ، دردی خورد آخر زمانیم که هم خب زمج اقتصادی چیزی برام فردا میگن این اومد راجبه آخر. تو چرا راجبه این روایت حرف زدی؟ تو که نباید راجبه ما خودمون باید راجبه رو باید حرف می‌زدیم. یعنی حرفو نمی‌خوام بزنم. خب. تو پرسیدی باشه همین آقایی که شما نمیشناستیدش باید من جوابات بدم خب ببینید ما تقریبا جنب وقت پیش یکی از این صهیونیست‌ها توی گفت ده داشته مونام 9 تا ده 10 تا از حاکام عربی صهیونیستان دو تاشون از بیخ یهودیان این دو که از بیخ یهودیان یکیشون سیسیه رئیس جمهور مصر و یکم ملک عبدالله اردنی من جفت اینا رو توییتاشو زدم اسنادشم گذاشتم اسناد متقن مثلا برای مصر نامه حفاظت اطلاعات مصر رو گذاشتم که این که سیسی یهودی منال ام از طریق مادرش مادرش از یهود اهل مغرب بوده مراکش جزء جایی بوده که یهودی زیاد داشته و آفریقا در هم نصب از مادر منتقل میشه سیسی خیلی به اینا خدمت کرد اولا تو اه... اعطای دوتا جزیره صنافی و تیران این دو تا جزیره اینجا. این دو جزیره چقدر جای استراتژیکی قرار گرفتن. اینا رو مصر داد به عربستان اینا همش در رسل تر ابراهیم بود. خب در عوض این بندر ایلات هم فنی الان خورده دیگه. این بندر ایلا داریم میه اینا از بندر ایلات دوستان میخوان یه کانال اینجوری بکنن بیان تا دریای مدیترانه که کانال سوئز رو دور بزنن. الان کانال سوئس دست اسرایلی نیست این سهرایستین ها مال مصره کانال سویز کامل مال که مصری هست اگه این کار انجام بدن یه کانال میشه رفت کانال میشه برگشت پول این هم آمریکا تقبل کرده کانال بنگورین بیارمش ببینیدش چشیدون جمالش روش هم بشه اینا ها این از اینجا میخوام بزن این بهتره. از اینجا میان، می‌کشن ببین از کجا غ... این نوار غزه دست این نقطه چینه. دقیقا شمال نوار غزه حال یه سوال، اگر هم اینا درک بشید از شمال شروع کردن، هل دادن به سمت چی؟ جمعیتو آفرین که این کانال در امان بمانه بعد شما بیا بگویین آماده نبودن برای این کار. اگر 7 اکتبر اتفاق نه افتاده بود، 100% اسرائیل باز بازم حمله میکرد 100% تا با صد درصد توانش اینجا با 70 درصد طبانش مجرد خب این از این اینجا مصر باید این کانال براش ناموس باشه مخالفت کنه باهاش. چرا؟ مصر رو دور میزنی تو یکی از چارده تا نقطه استراتیجی جهان دست توی مصری هست کانال سویس تو نبد میزنی برای این رقیب درست بکنن آنه جالبه اینو ما ایرانی هفت کردیم اینو کنن. <تص> خب اون زمان حقامنشیان که رسیده دریا مدیترانه این الان که با زور به دریا مدیترانه مردم اگه نگاه راه بردی داشته باشن اون موقع خیلی چیزار رو حتی بهتر تحمل میکنن بفهمن چه اتفاقاتی داره میفته خب این الان باید اما جالبه سیسی لالمونی گرفته علاوه بر اون از رود نیل دوستان از زیر از اینجا داره کانال آبی دارن حفر میکنن این دستوی بی تی ام رفتن زیر زمین دارن سراخ میکنن که آب شیرین جنوب اسرائیل رو تهمی کنن یعنی آب نیل رو سی سی داره انتقال میده به این طرح. یکی دیگه از اینا اردنه اردن تو این رو نقشه این رود اردن میریزه به دیتسی بحر المیت این میشه اردن. رژیم صهیونیستی فلسطین اشغالی کشور خیلی باریکه. او... کشور هم بازارن نگیم شهر میشه. به خود دیوانش شون ما تو ایران میتونیم حرف بزنیم. ما دیوانه منتظرن یک کلمه کلمات گیر بدن. این گفت کشور اسرائیل را به رسم شورای عالی امنیت ملی بزارت اطلاعات. خب بیگدایی کجا هستید؟ به قرآن ببینم چه خبره. یعنی صدر احمد به اسرائیل ها. این روانیار رو نمیدونیم چیکار کنیم. نقشه الان میترسم نقشه اسرائیل بنویسم نقشه فلسطین می نویسم اشتباه کنم فلسطین اشغالی احسن مثلا راه این خوبه ببینید این اردن این کرانه باختری رود اردن یعنی قسمت غربی این رود اردن اینجا رو می بینید اینجا 14 کیلومتر یعنی اینا رو خلشون بدی تو آب پشون میده خب اینجا یک کمربند امنیتی دارن اینا یه ننه یهودی رو آوردن اینجا سر کار به حکومت رسوندن خب ماشده خ خب آره <تصفح> <تصفح> نه دوره دیده آره دوره دیده یه پنتال بازی میکنه فیلمما هم بیرون داده خب عدتوار در میره بعد این کمربند امنیتی خیلی برای نوع مهمه چرا؟ به خاطر اینکه کشور بعدی کیه؟ عراقه عراق؟ دست جبه مقامته بالا سوریه دست جبه مقامته آقا ما خیلی رفتیم جلو صحبت یک،, یک یه نوار غزده رو نتونسته بگیره اینجا الان خطر شده سوریه رو که بریزه به هم میخواد بریزه به هم داره الان شروخ کاری میکنه میاره اینجاها این تیکه های مرز و درعا و اینها رو همه رو میده دست این تروریست که مرزش حفظ شه. اینجا این بلندیای جولانه که میشنید مال سوریه یاست دسته اینوس. مونتا چرا مهمه؟ چون اولا اشراف داری. از اینجا تا دمشق 6 کیلومتر راهه. با خنپاره میشه دمشق رو زد. خیلی نقطه بدی پایتخت یا این یک، دو بلندی های جولان تأمین کننده آب دریاچه آب شیرین هست. کل آبشون عملا دارن اینجا تأمین میکنن یه خط لوله تا جنوب کشیدن آوردنش بقیهش هم با آبشیرین کنها این هم بدونید برای همین بلند یا جولان برشون حیثیتیه سوژه و جای خوبی هم هست یعنی حقشون سوریه یا حق دارم میگون حالا چی شده اردنیا، عربستانیا گفتن ما حزینه باستازی سوریه رو میدیم ایرانی ها رو به بیرون بارها دارن میگن سالها سوریه سال ها میگن تمومش بکنی دوباره پذیرفتن دیدی که بشار اسد تادی عرب دعوتش کردن. استقبال گرمی هم ازش کردن میگن بناز بیرون شما خودت هم جای رسدی که شمال در دست رفته یه ادلبه که دست اوناست فکر کنید که از کشور خوزستان دست دشمن بش مثلا شما شب خواب داری فشار اقتصادی شدید هم داری مردان دنبالت اومدن میگن حالا چیکار کنیم خوب اینو هم درگیر نشن بهتره فلان باشه خیلی یارو با این مرام بذاره توی سیاست و تو روابط کشور دنبال این چیزا نباشید منافع همیشه تعیین میکنه این قصه است، پس اردن برای اینا هیستیتیه همین کشور ها ریختم به هم بچه ها اردن هیچ وقت به هم نریخت بهار عربی بیداری اسلامی همه خواهره میرنش از مصب میرفت و از تونست میاد بیرون از اردن به هم نریخت در حالی که 65 درصد جمعیت اردن هم فلسطینی هم. فلسطین تبارن کشور دوم فلسطینیا در دنیا اردنه، جانم. سال حالا خ... آره. خدمت شما عرض بکنم که اصلا صحبت سری نیست استول وارد جنگ بشم مینشیم اسول قطعا با ما وارد جنگ خواهد شد یعنی مجررا این وری خب اون ولد نمیکنه شما الان می می همین الان ما این بعدی صادق سه هم که شکل بگیره که قطعا شکیکقاگیر به نظر من ما خبر محرمانه ندارم و تحلیل گرم. من برداشتم اینه چند تا نکته بگم ممکن ن در ساش درستتر ب نمی‌دونم. الله. یک قطعاً پاسخ میده ایران دو قطعاً از بعد صادق دو محکمتر پاسخ میده سه متنوعه میزنه چهار مشارکت کننده ها گسترده ترن. یعنی فقط دفعه قبل سپا حوافضاش زد این دفعه ارتش هم ممکنه بیاد هزبالله لبنر هم ممکنه بیاده چهار تو گفتم پنج یا حالی هم با آمریکا میده این نیستش که فکر کنید و لانه چون اونا شروع کردن او وقتی تو یعنی بیا میخوام به جنگم میدونه طبعاتشو کشور رو سر کنسولگر این چیزا خیلی حساسن حق میدن اگر همون شهید زاهدی رو بیرون تو خیابون میزد این فضا نبود متوجه میگم؟ این فضا نبود مگه شهید الله دادی رو همراه با جهاد مغنیه پسر شهید اماد مغنیه مگه نزدن حمله کردیم او دنبال این است ببینید اسرائیلی که 6 روزه جنگ 6 روزه جنگ 22 روزه جنگ سی, و سی, و سی روزه جنگ و یک روزه همیشه جنگش اینجوری بوده به چند ماه کشیده چی شد یه سال می‌داره جنگ اسرائیلی که فقط تو یه جبهه جنگید چجوری جبه الان داره تو 6 هفت و با درگیره با غزه درگیره یمن داره عراق حالی بهش میده چجوری تو چند جبه؟ بدون براش مسئله شده و او باید این مساله رو را... الان آمریکا باید برود سراغ چین خاورمیانه به بکی تحویل بده اسرائیل میگه اینو به ایران تحویل بدی من تمومم تو بری نکی به ایران تحویل بدی از روی خواست و اراده ایران تحویل میگیره بگیره من تمومم آمریکا خب بسم الله بیا واسط و وسط نگیره اومدن ناتو عربی رو طرح شد دادن اامیئلون رئیس اطلاعات داخلی اسرائیل شیمبه تش اومد رسمان اعلام کرد که ما با کشور عربی و سنی باید یه ناتو تشکیل بدیم جلو ایران بایستیم این شد محور دوم پس محور یک اوکراین محور دوم اینجا محور سبوم گفتیم که با چین و اونا تایوان رو بردرگیش کنیم یعنی <تصفح> چاره ای نداریم دقیقا درگیری <تصفح> جان ولی هیچ کاری با اقتصادش نکردیم اقتصادو بکردیم ببینید من سوالتونو متوجه شدم این اصلا حرفم این نیستش که متوجه سوالتون نشم مساله اصلا یه چیز قبل اینه من بخوام راجع به اینو حرف میزنم خب یه مسئله اون وقت سوخرم اقتصادی حضورم من خب ادعام اینه که ذو ابعاد تحلیل میکنم خب نکتم اینه که اصلا فرض کن با اقتصاد، بی اقتصاد، اصلا هر چیزی یارو اومده بهت گیرده در شکام خوب کنیم بله، چرا کاری نکردیم؟ 15 سال رهبر انقلا... مملیکیت داره سال اقتصادی حلا میکن دیگه چیکار کنه؟ از, از فروش نفت خودتان را بی نیاز بکنید خودتان برای تحریم آماده بکنید اقتصاد, را مق... اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ یعنی در مقابل تکانه های اقتصادی مقاوم شود اسمش روشه خب اینه که اسم گذاشته سال گذاشته همه رو گفته برادر من وقتی ملت حال میکنن یه جور دیگه رأی بدن چهارشون کنین مردم. اصلا بزن بیخ کلشون؟ دوست دارن این کار کن مردم هشت سال دولت روانی رو دیدن چشیدن با گوشت و پوست و سخون لمس کردن خب حال کردن الان دوباره مثلا آیه هممتی بهت بشه وزیر افتوزان بشون جان بله نظاریم دیگه نظاریم خوبه که جاشو عوض بکنه من اینجام برای چی برای چی دارم پر... از روزی که اتفاق تو کشور تو این دو سر روز افتاد پش سرم دادم تو هیچ میذنم این کارا دستم برمیاد سخنرانی میکنم و برای چی برای اینکه این اتفاق نیفته چاره دیگه ای داریم این واقعیت حالا بیام یه چیز دیگه بگیم بیا از من اینو بپرس بگو پس دقتیه ببین اینکه چرا این کارا رو نکردیم که مقصرش من تو نیستیم تو میگی من که یه درسته نه تو نمنده آموزش پرورشی من نه, نه من نمنده حاکمیت اینجا. خب من چهار تا پرونده خودم تو دادگاه جور اسلامی دارم. <تصفيق> درست شد این از این. نقطه دوم نکته دوم فکرکن پرونده برای چیه؟ چرا راجع به هلیکوپتر رئیس حرف زدی؟ چرا حرف زدی؟ من ج رو چرا حرف زدی؟ پس این نازین؟ مگه حرف هم توزه میزنم یعنی فکر نکنن ان چه بولمشم میرم الان مثلا دمت کم زنگ میزن الان چهار تا سردار و دکتر و حاج آقا بودم آقا بهشت از شما درد نکند تشکر نه بابا باید بریم 60 تا دیگه جواب پس بدیم این جمله تو چرا گفتی کاری ندارن که خب یه روزی ما همین دلش می خوام سرمون درد بکنه بیا اینو بگو بی این سال خوبه بگو آقا الان با توجه به این شرایط ما چی کار باید بکنیم که از داخل تحت فشار قرار نگیریم؟ بخشی از جامعه ما ممکن است در اثر تکانه های اقتصادی نپذیرد. اسرائیل میزنیم مثلا یه اتفاقاتی هم میفته مثلا میزنیم یه اتفاقاتی هم میفته. اونم بالاخره چهار تا مشک میزنه. مثلا زدی یه برقی و زد. یه بخش انرژی و زد. بیا اینجوری تحلیل کنیم. خب آیا ما مقاومیم در مقابل این اتفاقات؟ خب بسم الله بریم کجا رو میزنه؟ هستی رو میزنه. هستی رو بزنه یک سرتیفیکیت جهانی داده برای اینکه ایران به بمب اتم دست پیدا کنه. کل دنیا دیگه این تهدید رو یه کشور اتمی پایگان. یه سوالی از من دو سه سال پیش میخوام بپرسم. اسمت چیه؟ اسمت چیه؟ آقا مشتاق. منم آقا مشتاق. هیروشیما ناکازاکی بمب اتم خورد. درسته؟ میفرمون بله من برای که بدن نمیشنم الان هیروشیما نکازده که خالی از سکن است ها نمیدونی جمعیت داره شهر پرنشاطی هست عجب پس جایی که بومبه هتم خورده الان بعد بالاخره جنگ جهانی دوم بوده دیگه به تو بومبه تو اما فرس کن سال آخر جنگ جهانی مثلا ماه آخر 1945م زده باشه الان چند سال گذشته 70 سال 80 شاید الان که شهر رو جمعیتش اما چرنوبیل جمعیت داره نه خیر این چی شده اینجا نیروی اتمی بوده که خورده این یه نکته آیا سر شوخی رو اینجوری وا می کنن؟ تو منطقه هستی رو مثلا در بوشهر میزنن کلی این کشورهای عربی آب خلیج فارس آلودگی اتمی دو همه دنیا به شما حق میدن بیخیال هستشی بریم بعدی دو بخش انرژی رو میزنه پارس جنوبی رو میزنه مثلا ستاره خلیج فارس رو میزنه خب تو هم که بیکار نمیشنی فاتحه انرژی میدی که بر من نمیجوشی کلیه سکتوش بجوشه فوتخه انرژی تو خاورمیانه میخوره. میشه 200 300 دلار در آستانه فص سرد. خب حال اروپا پرسیدنیه. حال خود آمریکا که که بزرگترین تولید کننده نفت هم که بزرگترین وارد کننده ها هم هست بس که اقتصادش بزرگه. چین وقت آسفالت میشه؟ آمریکا چین. چینو از روسیه داره اونور وصله. خب ما رو هم میگیم زدم ما وقت نمیکنیم یارو داریم تعمیر میکنیم کنیم ها رو مثلا نمی رسیم بهشون یه خوردن بذار حزینه جنگ اونم بده ما تا هم اونم سر و جونش تو بفهمه یه خورده بیشتر لخشه بیاد وسط آره خب اونا فکر نکن عین منو تو میشنن تحلیل میکنن تازه با اطلاعات محرمانه میمونه کجا زیر ساخته نظامی همین الان همینه ما داریم فرودگاه اونا رو میزنیم اونا پارچین میزنن ما داریم اونا نباتیم میزنیم اونا میان پدافند میزنن این دفعه که از نظر من شخ بخواهن زد من برداشتم اینه حتی یه توییت معناداری هم زدم نوشتم خورمشه در پیش هست اکس موشک خورمشه گذاشتم موشک خورمشه شما ببینید آزمایشش رو نگاه کن چیکار کرده یک و تون سر جنگیشه زلزله درست میکنه خب اینا بسم الله میای بیان. مسئله دیگه؟ یه بار دیگه این سایز این کشورها رو با هم دیگه ما یه نگاهی بکنیم خب <تصفح> بریم کی با کی میخواد درگیر بشه این میخواد ببین این میخواد این جغل جا چند جای اینجا رو میخواد بزنه این همش میخواد یه جا رو بزنه <تصفح> بعد لبنان هم هست عراق هم هست یمن ه... هم هست یمن که رسمان بندر ایلات اینجا رو از کار انداخته حالا کاملا غیر اقتصادی شده خب ببین تهش اینه. تسعید جنگ یعنی فاته میگه دو نفر رو گرفته بودن این آدم خورا انداختنش توی دیگه داشتن میپختنشون یکیشونش داشت گریه میکن میسوختی آبش قلقل میکرد ما رو داشت داغ میشه داشت میسوختن یکی میخندید او فلان فلانش تو دارن که آخه یه کاری کردم تو قزاشون خب اگر اینو بخونین کنه دیگهشون اینجوری میشه ضربه اقتصادی به ما مثلا میخوان چیکار کن ادع کن نه بریم, بریم جلو نفت نفروشیم. داداش نه که میفروختیم <laughs> چی سخت خواهد بود اما بدونید برای دنیا به مراتب سختر اینه اگه میخوان پیشو به تنشون بماله مال. ما مشکل چی؟ ناصری که؟ آقای اینچه هوایی ندارن؟ هزیدو. حالا که هوایشو دارید من میگم شما بگو باید هشت دو درصد از کجا هشت دو؟ میگه یه بابای سوار تاکسی شون یا آقای سوار تاکسی شو گفتش که چند؟ گفت 10 تومن گفت چی 5 تومن بیا این 2 تومن میگه خب میگه 60 درصد که رای ندادن اول اینکه 50 درصده <تص> یه 30 درصد اینجا زای تو گوشش خب <مخلح> آره بخشی اینجوری بگیم قبول داره بخشی از همه حرفی دیگه بح... حرف ظریفم هم همین بود میگفت بخشی از این کشور ممکنه با این سیاست ها همراه نباشن خب بعدش برکی من بر من آقا شما جنگ آقا آ خب توی صبر کن. آقا نه حرف درست داریم زن دونه داریم جلو. اسم چیه ؟ آقایه بزرگی. خب چرا کوچیک بزرگی مای؟ گوشکن آقایه. یه سال در ه سال دفاع مقد در جنگ هشت ساله چند نفر رفتن جگیدن از جمت۳ میلیونی. ۷ نفر. هزار دو میلیون و صد هزار تا ما اعام داشتیم. اگر متوسط هر یک نفر سه بار اعزام شده باشه 700 هزار نفر از جمعیت 36 میلیونی رفتن جنگیدن اون جنگ این دفعه اگر جنگی شود این تحلیل اونام دارن اون عدد جمعیت دو برابر شده تقریبا دو مثلا یک و دو دهم برابر شده اون عدد چهار برابر شده اون عدد پنج برابر شده. این نیست که شما فکر میکنید انطقی با ریاضی صحبت بکنیم اینو قبول دارم من جنگ آره می چرا هفت هزار تومن؟ من از پاشم تازه یه دکمه‌ای داره میزنه کل چیز سیستم پشم؟ پا میشم ها. از این میکروفونا دارید نه میگم با تو رو خدا صدا نداریم بابا یعنی شما تحلیل کنم به من چه شما اون از اون خودش بورو بابا. اون مشکل تو مشکل من نیستش. نه، خوب، نه. این اون بیجلوتاره. اینا گونه خدا بدجوری سیم کشی کردن اینا. این اینا مال توئه؟ این مال کیه؟ یه ذره نکته بهت بگم. ببین مسئله مسئله کشورینه بچا. خب، خوب گوش کنید میگه آقا این بحث اقتصادی ایف مریشت حرف اصول، بلاخره اسرائیل 7 میلیون جمعیت داره خب، یک میلیون بیکار خیلی عدد حضورگیه یک میلیون بیکار، 7 میلیون رو دقت کن نصفشو بذار پیر مر ها و بچه ها کسان میمونه چقدر؟ سه و نیم چهارمه یک میلیون بیکار از سه تا چهار میلیون چرا دنبال وارد جنگ شده؟ آتش رو تموم کنه بپذیره. نه. مسئله مسئله بودن یا نبودن یک کشور است. بر از دیدگاه اونا کشورن برای خودشون یعنی ما اشغال گیرن. درست شد؟ این باید حل بشه. مسئله اقتصاد ما تحریم هست هر جو تحریم نیست حرف مفسد بی سواد در این تردید داشت. خب؟ یا مرز داره یا کاسه به تحریم به قوله ماشا روحانی. خب ببین بچا تورم تورم پدیده کنید تورم یه پدیده‌ایه که ناشی از چند تا اتفاق این اگر درست تحلیل بشه ما کشورمون زمانی که آشاغ حسن آقا دولت رو تحویل گرفت جزء 18 اقتصاد جهان بودیم خب یعنی پول تو کشور ما کم نیست هست پول زیاده به خاطر تحریمایی که از اول انقلابم بودیم عملا تحریم ها اینجوری نبود که مثلا نابود کنه یه چی فلچ کنه شلوپل کنه اثر داشته آیه که بگیرین واقعا نارفه بی بگه اثر نداشته یه مسئلهی داره شما اسم کسری بودجه. این کسری بوجه باسم لارمان رایم دانیاش دیگه این کسری بودجه یعنی دولت سادهش اینه دخلش از خرجش بیشتره میاد چجوری جبران میکنه؟ خلق پول میکنه چی گفتم؟ برایش گفتم؟ آره، خرجش بیشتر از دخلش دیگه. چی گفتم؟ برای گفتم؟ آ، ببخشید. ببخش،, دیگه. ببخش. میبخشید یا نه؟ خب، خلق پول میاد انجام میده. خلق پول که انجام بده این چه جوری خلق پول انجام میده؟ ببین دوست جلسه سخنانی جون مادرتون سر بحث و با نکونید اینجا گیر می‌کنیم. خب، یکیش بله. پای پولیه که اون ساده می میگفتن چاپ پول. پولی الان وجود نداره. تو کی اسکن اس دستت بگیری دیگه. همه دارن عدد سفری که یکه خب گذشته چیز مختلف دلیل مختلفی داره یه بخش کتای توضیح میدم بهتون چیه اینجا من آمل اصلی رو دو تا چیز میتونم یک تحریم دو بانک ها اینجا حرف منو تو در میاد وسط منو تو چکار کنیم بالاخره تو یه بچه معلمی که میخوای معلم بشی خب یعنی خانواد فرهنگ، فرهنگیان هستی میخوای چکار کنین. این خلق پول مونجر به تورم میشه. یه چیز واضحیه شما پولی رو تولید میکنید؟ پشوان نداره. پشوان نداره یعنی چی؟ یعنی نگاه کن کش کن. اینا این بخشش فکر نکن من ریاضی دارم مثلا چیز پیچیده میگم آسونه میفهمید. اما استاد اینم که هر چیزی رو بر کسی بفهمونم. نگران نباشید. معلم که معلم تاریخی تو اینجا زبانی خوب هیچ چیز تعتیلی توام. نه تو این بحثای ریاضی میگم خب. ام وی مساوی این ام حجم پول کشوره حجم نقدینگی V سرعت گردش پوله گوش کنید این دو تام چی اینا میزان و تعداد کالا زب در قیمتشون صد هزار تومن پول دارم این صد هزار تومن تو بالش مادر بزرگه زیر سرشه یعنی که نه وجود نداره با این میتونی بری چند تا بستنی ده هزار تومانی بخری؟ دیگه از این سواده گفت خب 10 تا ده هزار 100 تا هزار تومانی، هزار تا 100 تومانی هیچ فرقی؟ نداره سد هزار تومنی گردش پول تقریبا ثابته بچه ها برای وی بار صورت گردش پول به این سادی ها تغییر میشه گردش پول تغییر میکنه خرید و فروش چی میشه. زیاد میشه. و جالب همم رازی هم جز کارمندا چرا؟ چون بیرون چرخه گردش پول هم. یه حقوق ثابته به اونام عیدی میدن که اون چی بشه؟ حدودی جبرانش خب یعنی اینجا نگاه کن من اگه سرعت گردش پول سفر کنم که انهو این کشور پول وجود نداره گفتم مادر بزرگی بذار تو متکاش یا بیام بهجا اینکه پول شما رو زیاد کنم مثلا ده میلیون دارم به شما حقوق میدم مثلا بهجا که بیام حقوقتون رو 20 میلیون کنم سرعت گردش پول تو شما رو ضبط در دو بکنم. هیچ فرقی نداره. 20 زب در یک یا 10 ضب داره دو همین کارم میکنن کشورها این کارم میکنن. حالا این پول این, عرض، این بخش پولیه. این خرج چی میشه؟ خیلی معامی این که دارم بهت میگم نصف مسئولله شما نمیدونم. چرا چون باشون جلسه دارم وقتی من من این رو برای اینا توضیح دادم دیگه فولم خب خوب نهایت داشته باشید این خرج چی میشه با این میزان پول چه تعداد میریم کالا و خدمات می‌خریم کالا و خدمات با چه قیمتی با چه قیمتی میشه سرعت گردش پول یه بیشتر توضیح بدی چهجوری بین ما میره آره آقا بقالی داره اون یکی مثلا موفروشی داره اون یکی نونفروغسابی است که شما می‌فرمایید این پول میدیم دستیم میگیم پولا نگه ندار سالی یه بار گوشت میخریدی دوبار گوشت بخر میگیم می پولا نگه ندار بروه اب بقالی زودتر خرید کن می اونم دوباره دو میاد از همین خود آدم میخواد چی میشه پولش دوباره برگشت تو جیبش منطور صابه دو کیلو گوشته چی اینجا کم میاد کالاها میزان کالا و خدمات این ها نگه دارید یعنی باگین قسطه اینه دیگه اگر تو به دریای کالا وصل باشی اشکالی نده. یه مثال بزنم از صورت گردش پول یه نفر تو این چرخه گردش پول اضافه شد آبا بی بی بی سی همین جوری میامد تا برنگشت دوباره به آ درسته کی بود اسنپیه تغییر به وجود اومد نه یه میلون رفتن سر کار اصلا تو اقتصاد ها شما خیلی دنبالی نبشه تو بخش تولیدی برای شغل فرض کنید ف... قبلنا ما تاکسی تلفنی میگرفتیم اما کمتر خیلی بیشتر شده. زریبش رفت بیشتر بخشش از سبد خانوار شد. یه میلیون رفتن سر کار. اون کیه؟ اون همون کسی که میره بقالی خرید میکنه. پول پس میده به همون بقاله. صبح بقاله خرید پول دخل و شب خالی کرده رفته بزنیش پول داده بهت فردا میخوام برم خونه خواهرام. پول داده به اسنپی اسنپی بعد زور ماده از اونم داده اصلا بقاله خرید کرده. این دوره برمیگرده. این اون فهمیه که باید داشته باشن. ببین یک تاکسی اینترنتی یوی تونس انقدر شغل به وجود بیاره. اوکی بریم اینجا. این بر مهمه. این تعداد... یا تعداد کالاها رو میبریم بالا؟ این اینو میارم پایین بچه ها. میخوام بزرگتربینیرسم. فارسی همین میرسم کالا قیمتشون. یا تعداد کالاها رو این بر رفته بالا دیگه هجم پول کشور داره میره بالا خلق نقد نگه میکنه. درسته این ور بر تصاوی بره بالا این طرح تصاوی باید برود؟ اسمش تصاوی لا خب. این رفته بالا اینجا چی میشه یا یک این آمد بره بالا جفتشون بارد. یا تعداد کالا رو میبریم بالا بلد. یا نگهش داریم قیمت ها میره بالا بلد. یکی یا جفتش بره ترکیب بزن حالا اینجا نگاه کن. کالا از کجا میاد دو حالت داره یک تولید میکنیم دو وارد میکنیم پول از کجا آمده اینم توضیح بدم ببینید عزیز من ما کشور عربستانی به فرس اومدیم اینجا اویل رو فروختیم به کشورهای خارجی 50 میلیارد دلار 100 میلیارد دلار 100 میلیارد دلار چی شده؟ شارژ شده حسابمون توی دویچه بانک آلمان توی بانکمون تو آمریکا، تو بانکمون تو اروپا. درست شد؟ این طرف گوش کن پس 5 میلیارد دلار من نفت دادم 5 میلیارد دلار تو خارج اینجا خارجه شارژ شد بانک خارج این طرف این مدل 500 میلیارد دلار هر چقدر دوست داشتم قبلش بگم میام اینجا ریال چاپ میکنن با عربستانم ریاله حجم نقدینگی رو چیکار کنم میبرم بالا وقتی بردم بالا این طرفم ما به به همون خارجه میگم داداش از همون آلمان پولا رو بردار بفرست بیاد کالاها رو اینور کالاها رو میبرم بالا تصاوی برگره آقا رفتیه بوده عربستان یه نوشابه هنو اینقدر تومنه اینقدر ریاله عربستان هم. اینقدر الان عراق عراق درگیر جنگ فلان و همان تورمش اینجوری که ما تورم داریم نداره چرا؟ وارد کنن نست یعنی تو ما به ازا هر چقدر بخواهد ای دقت کنیه همیشه شخصن آقا روحانی هم قبلی ها هم بعدیا، ها خیلی دنبال چی بودن وزارت. بازرگانی که چیکار کنن؟ کالا وارد کنن چی بشه یا ش میلیارد دلار پول داشتیم تو کره میگفتن گفتفتن همش روتون یخچال بدیم همه رو سامسونگ داخل پاکت بذاریم بهتون بدیم همه رو تلویزیون کنیم بدیم بیا تو اینه دیگه کالا وقتی وارد کن یه دیگه هم از تولید کنی خودت تولیدم اینجا یه حرف خی.. نکته ای هست اینجا روش پدر سخته بازی در میارن این وریا تولید می‌کنن اصلا مگه میشه کشور همه چی تولید کنه بزرگترین تولید کننده های دنیا یعنی چین آمریکا بزرگترین وارد کننده های دنیا آوار این کالا دوستان از مرحله ای که از ای, ای, ای, ای, ای, ای خوب دقت کنید هیچج اینجوری بهتون نخواهم گفت یعنی راحت همه چیز سر من جامعه و دارم مسائل اقتصادی رو همه همه فهم می‌کنم کالا رو A میگیری روش کار میکنی میشه B با C قاتیش میکنی مثلا میشه D همین جیری میری جلو میگه که ماشین ماشین ماشی که کار نمی کنم و چگاه کرد؟ انداخت دور و نه دوباره میگه تو دست خب <تصفح> <تصفح> دوباره پدرم اون در میره خدمتتون عرض بکنم که این A ای میشه B C داخلش میکنی مثلا میشه D همین جیری میری جلو هنر تو اینه به جای این بیا تا ب هیچان کی بیاش زد وارد کنی یا ایکس و وای وارد کنی بیا ای و بی وارد کن بذار نیروی خودت روش کار بکنه که بره سر کار اینه الان جمهوری اسلامی ایران 97 درصد دارواش خودش تولید میکنه می‌دونستی خیلی مهمه 70 درصد ماده اولیه وارداتی از هند اما کسی چیزی نمیگه میگم می‌بینم ماده اولی است همونجوری که چین از ما نفت وارد میکنه اروپا نفت وارد میکنه آمریکا گاز نمیدونم گازی وارد میکنه اشکالی نداره اینم تا اینجای ماجرا حالا چی شده دقت کنید تو نفت نتونی بفروشی یک خوب گوش کنید. دو پوله بیرون نتونی برگردونی بمونه اونجا ممکنه دیگه ایران تحریمی <تحرم> چه میگم تحریم اثر دارد اگه گفت ندارد چرت میگه برای این هرکی گفت چیکار رو باید میکنی میای این طرف ریال رو چاپ میکنی این میبری بالا از اون عقدینگی میبری بالا خلق پول میکنی اون طرف کالای وارد نکردی ارزش پول ملیت سقوط میکنه تولید کالا در ایران به صرفه میشه در ویژگی این کشور چرا, چ... چرا چین عرضش پولیش نگاه می‌داره؟ برای اینکه مزیت صادراتیش نسبت به کالای خارجی همیشه برقرار بمونه و این میشه که یوهوی سفر به ایران مغرور به صرفه میشه. کلی توریست میان میرن میگن آقا با 100 دلار میره ایران بر برمیگرده مثلا. متوجه شدید؟ انقدر این اتفاق میفته که باز دوباره قیمت ها چی بشه؟ خوش خودش متعادل میکنه. همونی که خدمت شما عرض بکنم میگن به عنوان دست پنهان بازار. حالا یه سوال مهم اینجا آیا ما هیچی نمیتونیم سادر کنم؟ که درم میکنم دو ملیونو بشیه نفت تو دل تمام این تحریم ها و جنگ ها و هر کاری میخواستم اما کردن مسئله دیگه الان برادرم تحریم نیست یه چی دیگه این توه اون کجاست؟ اینه من این مجبورم حلقه رو پاکش کنم چیزی نمیده ما اینو پاک کنیم دستم هزی هستش تا این حلقه رو پا... کامل کنم الان شریف میفته. که این دقدقهی که داریه دقدقه خوبیه خب یه وقت معلمی شما میری سر کلاس بچه مردم پوپولیستی نشه فرق من نوعی شمای نوعی با اون کسی که تو خیابانه یعنی که ما اگر انتقاد میکنیم راهکار هم میدیم عاشق کشور مونیم نقدم داریم خب راهکار هم میدیم این تورمه میاد سفره خانوار رو کوچیک میکنه آره دیگه ده میلیونش همه چی گرون شده ده میلیونش دیگه مادل 5 میلیون پارسال سال میارزه اینجوری مثلا مادل 7 میلیون پارسال سال میارزه. گوشت گرون تر شده پارسال سال میتونست. مثلا چهار کیلو گوشت بخر الان میتونه دو کیلو گوشت بخره, بخره. صفر خانوار که خوشش رو فشخار مادر شروع میشه میشه کنشگری اجتماعی اجتماعی سیاسی همکاری شما داری میکنی چه گوشت فلانه آقا گو دلار افتاده. اینا که زیاد شد حاکمیت پاسخ میخواد بده. آقا باید جواب بدیم مردم ناراضیان، انتخابات شرکت نمی‌کنن، مشارکت اومده زیر 50 درصد. این چه وضعشه؟ ما سال دیگه شورای شهر داریم، اون سال دیگه مجلس داریم، اون سال دیگه فلان داریم، چیکار کنیم؟ آقا بنزینو ریخته به هم. اینجا میگه باید بیایم چیکار کنم به مردم برسیم؟ چیکار میکنه؟ میاست سیاست های انجام میده در پیش میده سیاست چی؟ پول خرج میکنه دولت میگه حقوق ها رو ببرید بالا که بتونه دوباره چهار کلو گوشت بخره یارانه ها رو ببرید مالیات های اونجایی که نارد شدن یا خود بیارید هاین ها یا مالیات ها رو بالا نبرید هر چیزی از طریق کسری بوجه آ واریشاله این مزخرف سال به سال داره میچرخه قبلا تا بیش از آشا حسن آقا هر چهار سال یه بار میچرخید کامل خوب برای همین تابهش تابه جزء صحیح بود یعنی اینجوری جهش می‌کرد قیمتا یعنی چهار سال ثابت نگه نمی‌داشتن با تثبیت دلار اینجا جهش می‌کرد میپرید دوباره رسید به یک سالونیم تو دولت رئیسی اومدن دوباره مهار تورم رو گرفتن یه خورده گفتن خلق پول اینا رو جراشو بگیریم که الان دیدی که اصلا بونگوها پول ندارن بدبختا چه داره برگشت میخوره وام نمیده بانک به کسی که چی بشه اینو یه خورده مهار کنیم دوباره بردنش روی دوست یعنی اصلا من چند وقت پیش بودم بچه گفتم گفتم آماده کن دلار خودت از دلار 70 گفتن آقا الان فلان گفتم من به اون کاری ندارم من به میزان حجم نقدنگی کله کشور دارم نگاه میکنم حالا ببینید چی بوده میتونی ضرب تقسیم برمان تو چی میخونی؟ معالم چی میشه؟ فیز... خوبی دیگه تو اصل جنسی خب موبایل تو در بیار ضرب تقسیمش تو باید انجامی داره که اینجور شد خیلی کم شما چی جوری انتظار؟ خیلی اثر مومنی هست بگم چرا؟ مثلا حق نداریم چرا؟ چرا شما اجازه میدید به خودتون ما چرا خودمون به خودم داریم اجازه میدیم بگه مردم ریالی که هر روز داره سقوط میکنه رو خب باید تو دستتون نگه دارید با چه ای ؟ طرف میدونه داره زرر میکنه ردش میکنه میره الان مسابقه سر نگه نداشتنه ریال صد میلیون پول داشت بود چه میگیم یه سری برو خرج کن بعدوقت یه یا طلایی بخر یا چه تیک طلا برو نمیدونم مفتول بخر نمیدم طلای مستعمل بخر برای سرمایه‌گذاری برو یه جنسی بخر یه چیزی جز ریال این نتیجه چیه نتیجه‌ پس زدن ریال نتیجه‌ این سیاستای غلطه ریال رو بی اعتبار کردن مردم دوستان نگاهش دارن بعد میگه آها این مردومی ای که رفتن الان مثلا یه تیک رفته بعدوقت مثلا 5 میلیون پول که طلا خریدار بگیم آ این مبتکره این ظلم به اون آدمه ارزش پولش داره میشه توی خونه داری خونه 5 میلیارد میشه 10 میلیارد اون کل همین 100 میلیونش میخواد میشه 50 میلیون دیوونه است بازنشت شده بدبخ موقع بازنشتی میشه 150 میلیون پول دادن چیکارش میکنه خب منطقی نگاه کن 10 تا لاستیک فروشن با هم دیگه نفره 10 حلقه لاستیک خریدن برای میدونن ریالشون میخواد بی ارزش بشه رفتن خریدن نادزیدن که رفتن خوردن با همدیگه دیگه سوله گرفتن نگه دارن میریزن اونطور اونجا رو میگیرن یا اول ما محتکرین رو پیدا کنیم میگه بابا اون مال تقی که مال نقی که مال شهرام اون که بهرام اون که تو اون اون که ده حلقه مال ده حلقه مال اونه خب من بذار پس ادامه نمی خیلی مهمه اینا را اگه میذاشتن ما میگیم تلویزیون بگیم خودشونم هم درست بگن مردم متوجه بشن چی شد اگر یه سوال داریم اینا کسری بودجه نداشته باشن چی میشه مسئله تا حد زیادی حل دقت کردید این پول این وسط قاق بود؟ یعنی چی؟ یعنی من در نهایت نفت دادم، کالا همین بود. همین بود. نمی‌گم من سیاست پولی رو قبول دارم، خیلی هم قبول دارم. بگم من اصلا قائل برنم یه جایی اصلا لازمه شما خلق نقدندگی کنی. حالا یه سوال ازا دارم. آری. ما بیایم اینجا خلق نقدینگی کنیم خودمون بانکامون وام بدیم که این طرف مردم خونه بسازن چی میشه؟ باریکه تصاوی برقراره عجاب پول خزه خلق کنیم چی خلق خلق کنیم چاپ کنیم تاپ یا تایپ کنیم تاپ... بیا اینجا چجوری میاد پایینه؟ تو متوجه نشدیم معادله رو؟ ام میره بالا امو میبریم بالا خب آره آره دیگه این بارم پی میره بالا چی؟ آقا همه تون اینجوری نگرفتید فقط تون نگرفتی ببین من خلق پول کردم معادلش این بر کالا و خدم ها تولید کردم این سیاست زده این تورمی نخواهد داشت به شرطی که بسازی خالا سوالینه چند تا بانک وام دادن برای خلق هست مز... خب برای خلق مز... کن چقدر نیاز داشتن به واردات تقریبا هیچ کارگر مفت که داری جوان بیکار هیچ ببین ما الان ایران ارزون ترین کارگر دنیاست گوش کنید فقط یک کشور از ما کارگرش ارزان افغانستانی است که مسئلهش مسئله امنیته دیگه ما در میاد اینجا دیگه اغتصاص یعنی میخوام بگم کارگر ارزون هم تو همین بندگان خدا چی داری سیمان داری زمین اله ماشالله داری کمبود مسکن داری برای چه نمی اینو فهمیدید به منم بگید ببینید وزیر حالا اینا برای ما شرم میشه اینا بعضیشون رفیقای ما گوش کنید من اینا برای شما اینا ما محاسبه کردم وزیعه که وزرا اومدیشون صحبت کرد گفت ما برای این که قیمت مسکن رو بیاریم پایین میخوایم سیمان رو از تو بورس خب سیمان سیمان توی بورس بکشیم بیرون بعد چیکار کنیم دستوری قیمت سیمان رو بیاریم پایین که یکی از کالاهایی که قیمت مسکن رو تشکیل میده چه بشه قیمت خونه رو بیاریم پایین خدا پدر تو بیامرزه بریم ببینیم یه خونه 100 متری میخوایم بسازیم مسکن مهر خب مثلا مسکن ایکس مثلا هر متر ها هر متر مربع سه پاکت سیمان میبره هر پاکت پنجا هزار تومن میشه سد و هزار تومن خود جهنم و زرد دیویس هزار تومن صد مترش میشه چقدر؟ 20 میلیون تومن متری ده هزار... متری ده میلیون تومنم پول ساخته 20 میلیون نسبت به یک میلیارد. دو درصد؟ یعنی شما قیمت سیمان رو سفر کنی؟ از چقدره دو درصد یعنی ما با جماعتی طرفیم ضرب و تقسیم بلد نیستم درصد بیکنی تیما بود بهش گفتش که فلان تیم چند تا طرفدار داره گفت ست درصد گفت داداش من گزارشگر نیستم گفت از پنجاه درصد این معلوم بود خودش یه نفر بوده دیگه اینو فهمی چهره دو نفرن 100 درصد این که رفته شده 50 درصد طرفتش هم یه دونه بوده انگار چند درصد مرصد تعطیل خب این یه مثال که هیچ نیازی به کالای بیرون ندارم یه مثال خوب براتون میذارم که خوب متوجه روغن ماشین رو ببینید موتور ماشین رو ببینید به میزانی که روغن اگر اضافه ریختی تو شلاب شلوب کرد یعنی چی رو اگر خشک کار کرد یعنی رکود هر چقدر روغن این بعد تناسب باشه اگر روغن رو اضافه کردی در عوضش اقتصادو چیکار کردی موتورو چی بزرگتر کردی فرقی نمی‌کنه مردمم خونه دار کردی این ت... این همینجوری ادامه داره داره میچرخه 4 چهار سال 4 سال شد یه سال و نیم دولت قبلی اومد رو دو... دو سال دو سال و نیم الان دوبار افتاد الان که گفتم یکی دیگه‌تون من میگم گوگل کنید اون یکی که برام ضرر تقسیم کنه آقا شما مثلا دست به گوشیتون کیا خوبه؟ همه تون بنویس هزو نقدینگی کشور 1403 من میدونم میخوام خودتون بزنید بشنم بگه چقدر؟ 9000 هزار... میخوام معادله پیچیدر بگم تو حل بکنی یه انتگرال دوگانه بود حل کنی ها خب ترمکه خب گوش کنید هزار و بچه یا هفتاد ما میگیم شست جهن نمازد چون هفتاد میگیم به نفعون بری باشه هفتاد همت حجم نقدینگی کشور سال 92 بود که احمدی نجاد دولت رو تعدید داد برای شما دولار چقدر بود؟ سه و 500 تقریباً این حجم نقدنگی که رفته بالا این طرف تولیدی شکل بگید نگرفته پس عملا همش رفته برای دو فرار سرمایه هم داشتیم که با کاهش نرخ دلار تقریبا میشه اون رو هم با همچش پوشی کرد خیلی سادش کرد نه به خودت سبوم ابتدایی طرف این وسط این قرار بکنی خب الان حجم نقدنگی رو ایشون فهمدن شده 9000 هزار نو هزار زب در سه و پونسد بکن دیگه؟ <تص> تعقللبکنی؟ بچه کجا ای؟ با. کجاش؟ با باش شما که سرتون تو حسابه؟۶ تا ۵ هزار تومن؟ قیمت دلار خب اینجا من نگفتم نه اقتصاد نرفتی به آمریکا داره؟ نرفتی اینا که بی داره ده درصد داره ۲ درصد اینجوری نیست. حالا یه نکته از این بالاترم میره بله گوش کنید. چون یک چیزی رو اینجا ما لحاظ نکردیم. چون خواستیم سادهش کنیم همه بفهمن فهمانی چیزی لحاظ کنیم. اون هم چیه؟ اون هم اینه که از دل من. ما فرار سرمایه داریم. یعنی این مهمترین مسئله است وچو این مهمت. این همراه با اینکه نه هرچی گفتم استن بیروزی دور، اینو نگه داریم. الان دارن میگن دیفسو هزار میلیارد تومان. یعنی دیفس پنجاه تا همچین درون اضافه میشه. 9000 تا 250 هزار میلیارتان چون 9000 هزار میلیارده دیگه 9 میلیون میلیارد 250 همت بانک ها به شرکت های خودشان وام دادن اینجا گفتم سر خلق پول بحث دارم برای اینه اینم گوش کنیم چه خلقه پرون کنیم؟ این حساب دارایی بانک دارایی بدهی بانک دار سپرده من شما بدهیه برای بانک چون مال ماهه اونجا قرض بشتیم این بدهیش داراییش زمینش ملک شعبشه اسمش چی بود؟ بنگاهداری بانک ها بنگاهداری نکنن ره برمون برای چی میرید بنگاهداری میکنید؟ یکی دارایش یه دارایی دیگهش وامه میدونستید بانک ها هرچی وام بدن دارایشون رو چکار کردن؟ چون بده. بدهین مال ماست که رفتی وام گرفتیم. اینجا بانک ها یه حرکت میزن در حد دل کلاسیکو میان چیگاه میکنن؟ وام میدن به شرکت آ که مال خودشونه؟ میگن بد دوباره زمین بخر میگن زمین نمیتون خودم بخرن میگه شرکتشون میره میخره. خلق نقدینگی یکی کردن این رفت بالا قیمت رو برد بالا. ارزش اسمی خونه این خونه که رفته بود خریده بود ده میلیارد میشه چقدر؟ 20 میلیارد دیگه. این ده میلیارد وامی که بهش داده بود و دو میلیارد پاس کنه دیگه میاد پس میده هشت میلیارد میزنن ببددن. یا هیچ شد؟ خیلی صده حسابداریش هم درسته وام داد 10 میلیارد درست شد دو میلیاردم سود میخوایم بگیریم جن مذرت چی اش که اینقدر میلیارد سود میده دو الان دو میلیارد هم سود چه ناسایی کردن؟ عجب ترازنامه خوبی داری شما؟ خب؟ بیرونم این شرکتش صاحبه یه چیز میلیاردی شده حزینهشو کی دادن؟ مردمی که پول رو بیارزش, بیارزش شدن پول باعث شد حقوقشون یه یعنی تو کشور خارجی میخوام برم سروت من بشن یه شبه میرم بانک میزنن میفهم بانک میزنن اینجا میرن بانک میزنن برای همین دقت کنه همه اداره بانک دارن برای خوبشون. برای همین دقت بکنه هم امروز سوپرمارکتی ما شعبه بانک داریم اصلا لازمه؟ بانک داری اینترنتی بچیه؟ آخرین بار خدا شهاده من آبربانک هم گم شد رفتم بانک کاری نداشتم کارت آبربانک گم شد رفتم کارت آبربانک هم آبربانک هم ندارم خب؟ متوجه شدید؟ کاری که باید بکنیم چیه؟ یک چیزی بیرون از این حلقه وارد اقتصاد اگر نکنیم اینجا میگم بگم اینا چی هستیگه آو نه و لیبرالا هاو ریختن به نه و های هایی دیوونبازی هایی که شما دارید میشتبید ماله دو گروه هن که اینا کشور رو به باد دادن همه جا کشور رو به باد دادن خب اونا این دوتا گروه پرفوسور نه. اینا اینا تحلیلشون اقتصادیه اینا اجتماعی این بریا. این چی میگه میگه آقا کسری بودجه داری پول چاپ نکن لامصب بیا چیکار کنم پس بیا آفرین این کارا کن بگو افزایش مالیات بوق این وریا داد زدن کنشه داد و بیداد. وای مردم فلان شدن دارید ده فقط از بخش تولیدی وام میگیری چیز مالیات میگه افزایش حامل های انرژی بنزین آو جیق بازار زده آه، آی مردم بعد بفرمایین آبان 98 آذر 73 نه 69410 همینجوری از این تایمام داریم خب همینجوری میریزن تو شیکم هم دیگه دیگه چه خاک تو سرم می‌کنیم آ ب... برجام میتونیم ما پول بیاریم اه؟ همینه خب برای همینه نگاه کن گوش کنید چه چه آقای روحانی چه مرحوم رئیسی چه باقر قالیباف چه مسعود پزشکیان همه میگفتن بر چون پول اونم کهیس استادی اصلا خب چی نمیگفت اومین چی میگه؟ میگه من میدونم پول رو نخواهنداد برای چی برم سر رو دردی میکنم میرم از بیخین رو درست میکنم که باید وابستگی نداشت اون حرفشون اینه چقدر این واقع بینا یا نه اون مرحل دوم سه بریم وام بگیم از IMF میگه با پول خودمون رو نم حالف میاد تو کورس میبای یخچال بر دوبر یخچال میخوام یخچال اون زده دیگه گفتیم کالا از ای بگیری هرچی زودتر بگیری بهتره خوده دوشور یخچال بگیرم چیکارش کنم بکنم تو نایلون به اسم شرکت داخلی بفروشم کل ارزش عفز... کاری که شما کردید میشه نایلون <تصفيق> خب اینه بفهمیم چی شده بعد نقد کن اشکال نداره نقد خوبه بدونید من رایفی پور اگه سخنران شدم تحلیلگر شدم تو این جامعه دنبال سوالات خودم بودم به قرآن واسه شبهاتو خودم خواستم برطرف کنم، شبهه که بر خودم برطرف میشه. بعد میگم یه شبهم مذهبیه تا تش میرفتم. بعد میگم شبهم اقتصادیه، اقتصادی میشوند گفتم بیا من بگو. خب، لطف خدا الهی بود، پوشمون بد نبود میفهمیدم چی میگن. من فقط بالای 7 ده تا جلسه 6 7 ساعته فقط رو حوزه گذاشتیم تو اقتصاد. دکترای نقدنگی ما تو دفتر ما ارائه داد رفت. مخالفت کردیم، با تمام گروهان ها نشستیم. از تیفه های سمسامی اونا بگیری تا عطا بهرم این طرف خب با همه نشستیم از صادق حسینی حرفو چه شنیدیم تا اقتصاددانه مجموعه تشخیص که همشون طرفدار تثبیتن خب من حرفشو نشدم زینفم نیستم نه بابام بانک داره نه خودم وامی گرفتم برید ببینم من راهفوق کجا وام گرفتم نخواهم گرفت ان شالله خب آدم میگه بعدا سرش به مجبور میشه جو. بعد اینم از این یه کاری دیگه میتونیم بکنیم دوستان پس چی شد اینا میگن اقتصاد درست کن اونا میگن این اقتصاد درست کردنه بیچاره میکنه مردمو نظامم بین این رو تا گیر کرده واقعا گیر کرده تا میخو باشه بزنم اخ... اینا انتخابات در پیش است تابلو <تصفح> خطر انتخابات در پیش است خطر شورش اجتماعی این طرف هم میگه تا چه واقعا همین شده خب مثلا بنزین 1500 تا 3000 معقوله نیست دیگه خب وقتی فوب خلیج 50 سنته 50 سنت 60 سنت بعضن 50 پنجو... الان بنزین میرسه اس... چیز پاکستان یه دلاره. یعنی چقدر یعنی 70000 تومان 7000 تومان تو آوازه بشه سه تومان این آب معدنی چند تومانه دونی میگم کجا دونی هم چنین چیزی هست اینا میگن منابع کشور به باد رفت راست میگن اینا میگن ای فلان فلان شده میگه گरूम کنی راست میگن خب چه جوری نمیشه جام کردن ماه بعد بخنشیم میفکریم بریم چیکار میکنه که نه اینا در درو را بنذار نه اینا رسیدن به این که گفتیم بنزینو بده به خود این مردم یعنی به جای که تو برای ته این کاری که می‌کردیم خواستی به سفره خانوار کمک کنی که اینجا به فوش نده دیگه درسته بیا از اینجا بهش کمک کن چی آها خلق پول برای ساختم مسکن دو چیا دیگه دولت ما داره به از پول میتونه بده زمین مفت دوستان ما دوازده درصد ایران رو میتونیم بسازیم تا الان 1 رو ساختیم یعنی ببین دوبه ای نه ها بردشت بیابونو شرح کرده نه دوازد درصد که عالی آب هوا همه چی توپ رو گسل نیست و از این چیزا یک رو ساختیم خب بیا به هر خانوار متناسب با منطقهی که داره زندگی میکنه بگو هر کسی اون موقع مردم و ولد میکنن نه اینکه الان بگیم من یه میلیون پول میدم یه میلیون پول, پول پوشه کشه توت... بچه ما چی داری تو <تصفح> من دارم فی دست من. چی می شاید ایزی لایف اون ما قیمت اونا نرم بالا خب دو زمین مفتری میتونی به اینا بدی نگاه کنین دو دولت احمدی نژاد آوردن چهل همت بانک مسکن شد بانک متولی شد بانک متولی از طریق افسایش پایه پولی هم بود خب آوردن خلق نقدینگی کردن دوستان خلق نقدینگی کردن شد وام مسکن های مهر ما اثبات میکنیم این اثر زدت تورمی داشت یعنی نه تنها چی سیصد تا شغله درگیر میکنه ساخت مسکن. بعد تو کشور شما مسکن کم هم داری یه مقصص چیزی اضافه تر داری میخواد تنوعش بیشتر گو دو تا خونه داشته باشه چی میشه سه تا خونه داش نه یه دیگه داره از شهر میره تو کانکس دارن زندگی میکنن مسئله دوم میادین خیلی مهمه خیلی مهمه میادین مشترک انرژی شما با کوویت، با عراق، با عربستان میادین مشترک نفت داری اینا رو برمیداریم یاری؟ چهل و نه درصدشو میدی به برزیل هند چین سه تا کشور بزرگ بریکس خب خنجاییک درصدشو پخش میکنه بین تک تک ایرانی بر برمبنام کد ملی میخوای سیاست های مهاجرتی تو حل بکنی چرا نیا تو ایران وقتی نون مفته گاز مفته برق مفته همه چه مفته تو اگر اینو مفت کردی بایی کد ملی از بیخ نمیاد میده برمبنی کد ملی خب مهیدان مشترک هم این کارو کردی یعنی تو بر نداری عراقیه برداشته عربستانی آمدن پنج درصد آرامکو رو دادن به چینی زینف شد تمام اون چی؟ آره برای این بود حالا آره میشه حالا زد ممکنیه عمل ها میزنم با 5 درصد ما کار ندارن. خب این دقت کنید ببینید ما چند تا راه داشتیم درسته کسی که میخواد توی دنیا امروز میخواد اتفعات بزرگی بیافته نقش کریوری ایران رو حفظ بکنیم به دنیا بگیم نه بدون ما اجازه نمی‌دیم. هم زنگزورتون اون بالا فاتشو می‌خونیم هم این پایین خب. اینقدر محکم وستایم مشک می‌خوابونیم تو اسرائیلی که هیچ کس تو دنیا جاعتت این کارو نداره هیچ کس. مثل سگ برخورد میکنن با حاکم های کشور اروپایی اسرالیا. اینجوری جت داریم این کار انجام میدیم این یه پیوست اقتصادی هم داره. بیا برو این کارات هم چیکار کن درست. یک دونه اینها نیاز به خلق نقدینگینش. بلکه اون موقع این چینیه میاد میگه میخواید نفت برداری ببری خب. این بابت این میخواد پول به من بدی بابت این سهامت به من چه جیره اولا این هرچین چی 49 درصد خودشو بره بالا 51 درصد مردم بره بالا تو به سفره خانواده از اینجا کمک میکنی نه از طریق خلق پول دو این بانکای بی صاحب مونده تو بگم اینا میرن پولش کار میکنن دیگه اکاش ای تو ایران میرفتن ملک میخریدن نه الان ارمنستان ترکیه گرجستان اینجاست عملا هیچ کار میکنن اینم خوب بدونید یه در سوختگی دیگه اینو که انجام میدن فکر کچه دن قرار تو شب من فوش میدن به حد این آز. اونا نگران این حرف رو به گوش مردم برسه چون به گوش مردم برسه خاشم میفهم مشکل کجا بوده عجب میدونم برای خیره کیوبرم بگیرن میان میگن که این بانک آ یه شرکت داره آپریم این بانک آ یه دونه صرافی داره این ها توی پتروشیمی آزگوندم اسمش رو عوض کنیم صرافی B دیدم چشاتون چی شد خب آره پتروشیمی C خب وام میدم به شرکت A خودم شرکت همینو مال منه مال منه من بانک آلا همین تیکش میاد بیرون خب آره به این وام میدم ریال وامو گرفت پتروشیمی رفته 30% پتروشیمی رو دارم درصد پتروشیمی دارم رفته میاانات فروخته چی چی فروخته از محصولات چی فروخته ده مثلا چه میدم دو میلیارد دلار پول بیرون دارم خب صرافی هم که همه همون دارم میگم که این میخواد پولو برگردونه درسته؟ این میخواد پولو بره بر بیرون بره ملک بخره دیگه این شرکت آه های. میخواد ببره خارج اینجا هم خارجه این پول خارجه اینجاست میگم دوداش بیا من تو داخل این پولو میدم به تو تو تو خارج بده به اون یاری که ازش مل خریدم گوش شون شون مخصوص. کاری که میکنن اینه به پتروشیمیا گیر ندید به بانکا گیر بدید این خطای این دوستانی که میروه پتروشیمی تعلیم وای میدونی این پتروشیمی سودش صد حمت شده میدونید دونید فولاد سودش مثلا فولاد شده صد حمت سود این دو میلیارد دلاره دلار دو میلیارد دلاره دلار 50 هزار بشه میشه چقدر صد هزار دلار شصت بشه میشه چقدر هفتاد بشه میشه صد چل. دی, دی, دی چل هزار میلیار این پروفسور این داره دلار میفروشه برو رو نگاه کن پارسال شرکت فولادش فولاد معروف کره چقدر سودش بوده 6 میلیارد دلار بعد بند کردید به این بدبخت فولاد خودمون که تنها گریزگاه تنفسی ارزی ماست 6 میلیارد دلار در چه حالی در چه حالی یعنی به خدا قسم درد اینجاست که ما تو مملکتمون سرطان با خودمون درگیریم ای کاش فقط آمریکایی و اینا بودن با چه انگیزه ای با چه اعتماد به نفسی بدون که اطلاعات داشته باشید بدونجوری برای مردم حرف میزنید از آخرت نمی ترسید من اگر حرف میزنم مسئولی که از شرکت فولادی رو آوردم 6 ساعت تو دفترمون به صلیب کشوندمش ترازنامه بدبخت برای من باز کرده دونه دونه گفتم این چی اون چی فولادیا پدر نمی کنن میکنن بیا من بهتون بگم چیکار میکنن اینا نیست اینا که دارید میگید چیز دیگه است پتروشیمیا نمی میکنن نه اینه که شما میگید بریم قیمت سیمان و صفر رو بکنیم بیاریم پایین فرم پ... که دو درصد در از سر بذارید تازه ما قیمت زمین و اینا رو حساب فقط ساخت ببین برادر من کرر تو نقشه بتو نشندم اینجا بود این استرالیاس، این بره کوریزن برزیل اینجا دیگه ندارم باشه این داره از اینا سنگاهن میخره با کشتی ور میدارن میارن اینجا تونی پنج دلار. فولاد خود ما فولاد اسوهان سنگاهانه تو خود ایران میخره تونی دوازده دلار <تصفيق> مطالب شدید؟ باش باش. بعد میان فوشه رو میدن به فولاد عجب 5 بله 5 دلار تو بندر به تو تحویل میده این اونجا جرده اونم به تو تحویل میده چقدر؟ دوازده دلار فوش هم میده بعد این بیچاره فولاد فارس بر بر قد میشد اول اینکه تحقیق میکنن کجاست فولاد اینا رو قد میکنن 400 میلیون دلار فقط بابت قطعی برق zarar کرده 400 میلیون دلار zarar کرده اومده چیکار کرده گفته ددوش من خودم برای خودم نیروگاه میزنم جون مادرتون با من کاری نداشته باشید فولاد خودش برای خودش رفته نیروگاه زده رفتن سراغم نیروگاهش گفتم اخ قم برق تو بیاد ببین تو آقا قول نده بابا تو با ماله بازیت. هرکمه اومد میدان نف... گازی داشتیم کسی کسی بهره برداری نمیکنه. گفت من این میدان گازی رو خودم بهره میکنم، خودم پول میذارم سرمایه‌گذاری میکنم، برمیدارم گازشو میبرم اونجا، نیروگام را میندازم. هیچ کاری با من نداشته باشید دیگه. من فکر کنم من خارجم. فکر کنید من خارجم. رفت اونجا، ریختن اونجا. اصفهانی‌ها اومدن گاز استان ما رو بدزدن. ولایی. خارجی تو میگی بیا سرمایه گذاری کن اسمانی نیاد اینا اینا کار آمریکاست؟ اینا کار ابسرائیله آقا شما این جای من بودی روزی 20 بار سکته میکردید خب چون میدونم مسئله کشور کجاست تشنه هایی رو میبینی این طرف آبایی رو میبینی این طرف این باز فاصله اینم به اون پنی ساندی زبونش رو درست کنه آبا مکیته نمی کنن بچی همه چو گره به این بر. نمیشه نمیخواد این کار انجام بده میتونم 100 تا مثال دیگه برای شما کلا ما دو تا بچه ها شیلنگ تنفسی عرضی داریم برای آوردن دارو برای آوردن کنجاله برای آوردن قضا قضا دون مرق دون مرق <تصفيق> میگم دون مرق یعنی آتیش میگیرم به قرام اصلا الان مرغ با این واردات و با این قصه ها و همین دلار بدبختی بیچاره ایمون رو برم داریم میاریم. دونه نمور می‌کنی می‌خریم می‌دیم به مرغداری‌ها دیگه درسته؟ گرونتر از اون چیزی که بری مرغ از خارج بخری هرنباتز در می‌ران کن می‌گه فرقش عوضش چیه؟ عوضش داخلیه، صنعت بومیه. میگم باری کلا زده نیست ای چیکار میکنیم مرغ رو بزرگ میکنم ممنون دست شما در نکنه با گوزایل مفت. بعد دیگه چیکار می‌کنید؟ چند نفر سر کار بردی بابت این کار؟ دو اینجاش آیا ما خب بالاخره قضا رو که نباید دست دشمن بدیم؟ باشه میشه بفهمید جوجهش رو از کجا میارید؟ شما اجداد و والد اینا همه از خارج وارد میکنید تو باید بری راست وارد بکنی از شرکت راست باید بری بگیری کجا تو خودکفایی؟ اومدید روی جوجه آریان کار کنید؟ جوجه آریان تا 600 ست گرمی شو خوب رشد میکنه؟ آریان آریان حپ شب باید که مشابه با خورسیه بر خودش نه ناشنا کن خب بعد آوردم آور تا 600 گرمه بعد اون دقت کنه بعد اون ذریب تبدیلش کاهش بده میکنه بعد روش کار کنم ظریب تبدیل چیه میزان گندمی که میخوره میزان سویا که میخوره و به گوشت تبدیل میکنه دو برابر اون یکیاس یعنی عملا تو باید دو برابر غذا قضا بخری غذاتم که تو داخل, داخل تولید نمیکردی از برزیل داری وارد میکنی از تخته. کسی بود تو شما همین الان با روسیه بره ببنده؟ بگه تو غذا رو به من بده؟ رفتید این کار رو انجام بدید؟ نه روسا که گور پدرشون، شما خب کوچکترین حرفی میزنن به مثل بومبت هم میتره که دیدید؟ امریکایی ها غربی ها هر کاری میکنن هر روز تحریم، هر روز موشک بارون هر روز کسی چیز رو میکنه اینا یعنی عقبه رسانه ای داره من که با هیچ‌کدوم من نا شرقی نه غربی وکیلی شما اون تهی نفر بود سوال می‌خواید جان اسم تو بگو اول چی هم میخونی هم بگو آه. جان خواه. نه من که دارم میگم بانک اسمم میبرم آمارم میدم برید نگاه کنید همه این بانک ها اسمشون اومده بیرون وامایی که به کارمنده خودشون میده اومده بیرون شفاف شده خیلی هاش همون هم که شفاف شده بدون با خاطر همین صحبت و همین جنگایی بوده که ما انجام دادیم ما که نه خیلی دوستان یعنی این جبهه گوش کنید نقطه شون ایشون از قصه حسین کورد شب شروع کرد خب ما راجبه تعاملات منطقه رو طرف که حرف زدیم آه خدا پدرجم بعد نه چون گفتی حسین کرده شبستری فکرم مثلا همراه با نوعی از کنایه و نقد، خب این هیچ اوکی هیچ خب بریم بعدیش راجب این که نحوه برخورد با اینا چی باید باشه درست الان شما سراغ این شبکه هایی که اینجوری شکل گرفتم برید اینقدر خطی و ساده نمیتوند برخورد کنید یعنی چی؟ من بودم میکردم اما من خودم بودم یقین کنید اینا رو به صلاوه میکشیدم یعنی میآوردمشون میگفتم به کی وام دادی این شرکت با چه اجازه وام دادی با چه مجوزی دو حمت به این وام دادی این که وامو گرفته کجا رفته دون دون اینا رو میکشوندم میآوردم در ملعه آم عام حکمشون در ملا عام اجرا میکردم خب اگر بنده کاری بودم حتما یه زندان بارها گفتم ویژه اینا درست میکردم ویژه مسئولین دریاچه نمک غم. بعد به غیر از دستجوییاشون بقیه جاهای زندان رو لایو میذاشتن ملت نگاه کنن دوربینا رو اشتر کنن بزنه شبکه زندان خب شبکه زندان نگاه کنین مثلا میده هاشمی یا شکلک در بیاره بره اون یکی اینم ویتنام چیکار کنه اون یکی رو هم چیکار کنه بکنن مثلا جای هم بر نمیخوره تاش میخوان مثلا تو زندان لخشن ملت بهترا شدیدن خب اونم اتفاقی نمیفته چیز خاصی منظور من نیستش یعنی هزینه‌زایی باید درست کرد برای اینجا آدرس غلط میدن از نظر رسانی من چیه ببین من راجع بانک‌ها شروع کردم حرف زدن به محض که شروع کردم راجع مثالی فقط برای شما میذارم یکی از این بانک‌ها بانک سرمایه بود که وام داده بود به اینا خب ما برای یه سری از دوستانم مثلا میلاد گودرزی و کیوکی و, کی و اینا اومدیم دست گذاشتیم و اصل کار رو روخه کارم بچه‌ها بودن ها میلاد گودرزی نا بودن خب وقتی واسه خوشیم دونه دونه عبر بده کاره که اینا پول بانک هم تازه پس نمیدادن توی ترازنامه چیکار می‌کردن گفتیم گفتیم این پولی که اینجا می‌دی وام دارایی بانک 100 میلیارد پول داده سال بعد 120 میلیارد بعد مثلا بگیره مثال‌ها این بیسته گوش کنید بچه‌ها 120 که بگیره 100 تاش که خلق پول اینجا کرده بود دیگه بانک با وام دادن خلق پول میکنن قصتاشی که پس بگیره چکا میکنه؟ محو پول میکنه یعنی امی که اینجا رفته بود بالا یه میزانش کم بشه اما تو مملکشت ما تقریبا محوه پول نداریم این رو که پس میداد 120 باید پس میداد 20 شمشه سود چندسایی میکرد دیگه؟ بلاخران بنگاه اقتصادی بانک داره کار میکنه سود کرده اجاره داره میده، حقوق کارمند داره میده، این چیزا. سر سال میشد وام رو پاس نمی کردن. بانک اینجا بعد می اومد اعلام میکرد من zarar کردم، اصل پولمو بردن. آی مردم، چقدر پولم رو بردن؟ 100 تا بلاویه؟ 20 تا 120 پولمو. بانک این کارو نمی کرد. می اومد 120 تا رو یه وام جدید تعریف میکرد. دوباره این باعث میشد چی؟ این بي بی... اساس میلیونش که برنگشته، 20 میلیونش هم برنگشته، اما 20 میلیون سود شناسایی کرده ترازنامه‌اش مثبت میشد. یعنی می‌تونستان بانکای ورشکسته رو بیارن چه این امحال بانک مهلت دادن و استمهایی که اون می‌کرد طلب مهلت بعضی از این وام‌ها رو تا ده سال عقب مینداخت اینم چیکار کرده بود مثلا وام رو گرفته بود رفته زمین خریده بود بعد ده سال ارزش این زمین می‌شد 3000 میلیارد تومان خب می‌شد سهمت می آورد این پول همش با هم جمع شده بود 120 تا وام جدید باز بعد مثلا 144 تا برمیگردوند سال بعد 144 جدید 160 تا ته شده بود 200 مثل سگ پات می‌کاد جلو بانک 800 میزد به بدن دو 800 می‌زد به بدن متوجه شدید برای این نشلی فوربس میگه تعداد سوپر های ایرانی میگه سوپر ملیونر مونتم ازش میلیون جست جسال اساساً به چیزه به دلاره میگه ایران 250 هزار تا سوپر میلیونر داره عربستان سعودی دویست و پنجهزار همه اینا که اتفاق افتاده؟ نه و به هزار چار ست. تو دو سال آخر روانی. چرا؟ چون دلار جهش کرد. دلار جهش کرد یعنی ریال بی ارزش شد. یعنی قیمت این ملکه یه هممتی شد سه هممت شد دو هممت. پولار پرت کرد اور. خیلی واقعیت. چیکار باید بکنیم با اینا؟ رای که من میفهمم آقا اینا اومدن گفتن یه تمومش کن استاد چش نیم ساعته دارم میگم 5 دقیقه دیگه وقت خب باید چیکار بکنیم مطالبه کنیم منو تو آقا بانک ها رهبر مملکت اومده میگه بانک ها غلط میکنن بانگاه داری میکنن میرن زمین و این میخرن حالا فرض کنید این بانک خلق پول میکرد میداد به کارخونه تمام بود همش وامش ایران مال بانک همین بانک آینده نصف تورم کشور مال بانک آینده بوده مال یه بانک خاص عوضش چی عوضش ایران مال ساخته بهما چه بانک بعد تو ایران مال پشمک حاج عبد الله بفروشن فقط کالای لوکس فروخته خواهد شد یعنی بستریه برای خروج ارز واردات کشورهای از کشورهای خارج رو برند بعد میتونه بزرگترین مال جهانه دیگه میدونید عجب اومول فساد در کشور ما بانک ها آدرس غلط بهتون ندن برجام آدرس دوم سومه ماجراست اینو جلوشو بگیر جلو این چرخره رو متوقف کن با این 30 میلیارد دلاری که هم دارید دارو وارد کن غذای مردم سامان بده تکنولوژی پیشرفته وارد بکن کشور استیبل میشه زمین بده به مردم خونه بده به مردم سهام شرکت ها بده به مردم ببینم یک نفر از مردم اون موقع دوست دارن یه طرق تو این کشور بتریکه برای اینکه سهام خوششون سقوط میکنه کاری که کی کرد؟ مالزی کرد ترکی مالزی انجام دارده مردم آبار سهام دار کر. از چی؟ کدوم کشور کدوم دولت در دنیا به اندازه دولت ما پول داره میدونی که ما یکی پولدار ترین دولت های جهانی. دولت ما خیلی گنده است ما تقریبا هیچ شرکت خصوصی نداریم ما تقریبا اقتصاد خصوصی نداریم همه چی خصولاتیه چند درصد ایران خود رو مال دولته اگه اینقدر کمه پاشو رو مدیرش دولت میذاره کجای کره زمین دیدی یه دو دقیقه دیگه کاغذ نرم من خودم فیتلر میکشم تویی نه اون فکرامو خب خودم فیتلر میکشم پایین این این دیوونه خونه داشته باشید ای ای اینا با خدا قسم یعنی هر جه کوری بگی بولکی نفاس به تابعیت میده چی؟ من رد دادم یه بابا. خب. <تصفيق> با؟ گوش کنید من مراعتشون رو میکنم اگر فضا بری تو فایت تو اینجور چیزها که من تا الان چیزی نگفتم اینا رو همه رو به اسم میگم اون موقع خب اینجا گوش کنید این کارخونه خود رو سازیه ماشین ماشینه ما همی شکلی هن. خب اینو تولید میکنه اینم توی قیمت تمام شدهش دیویس میلیون تومنه به های تمام شدهش دیویس میلیون تومنه چرا انقدر گروه نفلا اینم جز چرتو برداسا منم جز این مزخرفات به خوردتون بعد یا دو نفر رفتن کلاس خط بعد گفتن که آقا من یه شش ماهی کلاس خط رفتم یکی چی نرفته گفت است. یه میلیون مده تو 500 هزار گو من بلدم گو من باید 500 هزار تا زور بزنم و رو مخ خطر بکشن بیرون خب این نوع نوع راحت میگیره من اول نه چی گفته ماشین چوی رنگیرون ماشین گرونه مردم مجبورن پرات بخران عراقی‌ها چرا میخرن عزیزم برای چی میخرن می صرف تر از ایران هم است تو عراق دیدی از این عفیا هستن چه راحت تو عراق میرن پرات 3 میلیون بابا دیگه پول لاستیکاش در میاد دیگه شریوری میگه هزار دلار قیمتش تو عراق سای بابش میگن هم سای با. سای باشه هزار دلار هم خرج پلاکش میکنه اونجا مع هم 6000 ش هزار تا رو می بینیم میلیون اینجا, دل... اینجا پ چند آقا یه قیمت طبیعی اون باید گرون تر باشه پول صادرات و فلان و یه کشور دیگه حمل و نقل بالا همینه دیوونه دیوست میخره نه میصررفه 6000 دلار دیگه کمتر ماشین تو دنیا چیه؟ ماشین صفر ما یه دونه ماشین پیدا کردم تو این دیدیم 4000 دلار رفتیم سرغش دیدیم موتوره به خدا آپشناش نزاده بود آینه عقب داشته باشد یا نداشته باشد میشو 4200 نمیدونم بفهم اینجوری این بعد اصلا موتور بدنش ماشینه موتور موتورش موتوره خب تو هند برای چیز سبک مثلا بر جابجایی این سه چرخه‌ایه موتوره اینا چهار چرخشه کردن که چپ نکنن خیلی اینه این 200 میلیون تومن تموم شه این بدبختیه 220 میلیون بفروشه دیگه دی می‌ستو 2 میلیون تن دولت میاد وسط میگه اینو باید 180 میلیون تن بفروشه. بکی به این نه این بعد وقتی که 500 میلیون میخره تو بازار به اونی که میتونه ثبت نام کنه اصلا چرا ما باید یه شانس بذاریم برای ثبت نام چرا باید لاتاری باشه ثبت نام اگر کسی دو تا بچه بیشتر دارد بیاید گواهی نامه داشته باشی ماشین دیگه نه چرا چرا این شانس دارید میدید به از کشور چرا به همهشون نمیدید؟ بعد این چی میشه؟ این ورشکست شده حقوقاشو نداره بده میاد چیکار میکنه؟ میگه بیا ایرمک در به داغون مینزم ورقه رو نازکترش میکنم دیدی؟ طرق لق لق لق حق داره تو هم بودی این کار رو میکری به امیرالمومنی المومنین خب حق داره این کار انجام ده میگه منم نازک نازکترش این وسط به من بگو ببینم این ما به ازای 180 تا 500 کی میخوره می اونی که تونس ثبت نام بکنه، اونی که بلد هک کنه، اونی که بلدان یوی 2000 تا یوی به هر اخبارشون یادتون رفته؟ با ربات ثبت نام میکنن، یک سری بلدان نمیدونم فلانن سهام اونو میخ... چیز حق ثبت نام اون یکشو میخرن، کد ملی تو وردا بیار، اینقدر پول میدیم، اینا برات چیه؟ آقا من اینا به قران نمیفهمم. لا مصب، بذار این 220 بفروشی، اینا 250 بخره. کجای کره زمین یه کاری میکنن هم تولید کننده ضرر کنه هم مشتری؟ به قرآن اگه جای پیدا کنیم ما کیس استودیوی کره زمینیم. کی نو مطالبه میکنه هیچکی. فوش میدن به این بدبخت. فوش فوش فوش فوش فوش فوش, فوش، تحقیر فوش فوش پدرشو در بردن اما میرم میخرن ای. ببین اینو باید مطالبه کنیم. باید مطالبه کنیم. باید مطالبه کنیم ماشین ماشین واردات واردات ماشین آزاد کن. که یه خورده این سرکوب قیمتی بکنه لاکچری بازی شکل نگیره اینه وگر ببین با داد با ما با این چیزا مسئله حل بشو نیست این, این ایراد داره بعد حالا چی شده بچه این ورشه که از شد میخواد حقوق بده نداره صد هزار تا کارمند داره خطرناکه باش بگه میگه تحتیلش کنیم یکی نشستان حساب کرد بگه مثلا این نور تعطیلشون کنیم بعد ورداریم چی بکنیم بیمه کارگری بدیم به کارگراش کمتر ضرر میکردیم خب میگه نه دو داشت رو تونستی بومی کنی خودت بسازی فلان فلان هر تحتیل کنی دو نریزن جاده تهران کرج ته رو ببندم نریزن مسئله امنیتیش میکنن شما که میگی چرا کاری صورت نمیگیره هپکو یادته میریختن راهن تهران عراق رو هپکو کجای ماجراست نسبت به ایران خودرو سایپا اندازش اصلا اسکیلش تو چقدی ماجرا ماجرا امنیتی میکنه خوب چیدن انصافا بعد بلندشی ش کولار یه رو براشون دست بزنی مسئله دیگه اینکه کم آورد میگه من دیگه میخوام الا کسی کنم من میخوام برم توی دولت حد ترین سهامو داری اینجا داره برای من رئیسمو تعیین می‌کنی بابامو رو وردی قیمت تعیین میکنه چه ولم کن دیگه میگه نه ترس به وام میدم یه دستور میده یکی از این بانک‌ها صد حمت به این وام میده خلق نقدینه کرد ان خلق نقدینگی رو کد داد به دلالا بعد موقع پاس کردنش این که نمیتونه پاس کنه پول خودش رو بعد بدبخت بده نمیتونه پاس کنه همین جوری استمحال صدمیشه 110 120 همین جوری میاد پایین همون که تو گفتن ناتعش میگه اصلا دیگه ندارم بدم میگه اشکال نداره وزیر سمت به بانک مرکزی داداش این پولشو نمیتونه بده این بانک میاد میگه من چه دیگم که نگران نباش بانک مرکزی با تو صاف میکنه بانک مرکزی چی جوری صاف کرد خلق پول گفتم یک روش خلق پول گفتم یه دنیاست من وقت ندارم براتون بگم تو این چرخه یکیش با خودرو داره صورت میگیره تو مملکت که چی ما خلق پول کنیم کل مردم رو داغون بکنیم دللامون عشق کنن ایران بهشت دلالوس اینا که برای پولا شدن میرن خارج خرن خرم کیه؟ آه سال بپرس آه باش ما گفتم هر کی میره من این من بیتربیت شما رو داد نه اینو خیلی هم گفتن سوال میخواد بپرس بگو بگو پندقی دیگه چکا بایم مسئول سالان دار چپ ببخش های جان آه رفتیم رو هم سال اصلی که گفتم بپرسید بگو سودان جنوبی بله، کشورش کردن دیگه اسرائیلی ببینید این اگر دیگه من لپتاپ روشن نکنم براتون چی میفهمیدن؟ این نمیزه دای جنگی راست خواه ببینید این اگر آفریقا باشه این دریای سرخ باشه دقت کنید این مصر باشه سرچشم نیل اینجاست این سودان این سودان جنوبی اینا مسیحیان هست و ها اومدن اینا از سودان جدا کردن و اینجا سد صد ساختن سدارو دارن میسازن الان آب مصر هم دست ایناست فلزا این میگه اگر این آب اینجا ندیم من به این میگم یه حالی بد بده همین کارو با ایران دارن کجا انجام میدن ترکیه افغانستان ترکیه داره آب سد می‌بنه عرصمون خوش داره میشه دجل و فرراکر کار کرد کرد حالا اونجا سراغ عرض. این طرف هم هندیا بر اینکه حال پاکستانی ها رو بگیرن افغانستان چون کوهستانی سرچشمه خیلی خلل از رودست. میگن بر اونجا صد بزن که حال پاکستانییا ها رو بگیرن اما کنار پاکستانی حال ما هم داره گرفته میشه. خ ببین وقتی میگن آمریکا شیطان بزرگی یا صحیونیست و حامم زادن شما فکر مثل الکسی و واقعا خود جسم. واقعا خود جنسانی مثلا رو میدونم تو سیارات دیگه هم خدای پدر سوخته ی آفریده باشه همینجا آفرید فقط الان اولام تو دنیا تنها کسایی که جلوینا در افتادن دارم با اینا درگیر میشم مهم اصلا فکر نکن. یه جایی اصلا این نیستش که مثلا اون اراده هم باشه ما اراده داریم برای نابودی زمین هستا اما یعنی جمهوری اسلامی نه اما بدون اون میاست سراغت اصلا این نیست تو کاری نه. نشستیم بغل ما تو خلیج خوکهاییم ما تو خلیج مکزیکیم اون تو خلیج فارسیم دور تا میگه منو ببخشید ما و کشورمون وسط پنا چی نظامی شما ساختیم دور تا دون پایگاه نظامی اون ول نمی‌کنه اون میگه من تا ابد میخوام ابرقدرت بمونم نمیخوام شما نفس بکشید آقا من مشکل ندارم اون تا اینا سوال میپرسن چیکار کنم بلند بلند خب خوب نه. با دیر جواب دادن یا جواب ندادن چی؟ کدوم یکی؟ ببین من اینو قبول دارم یه خطای راهبردی ما کردیم. من اینو قبول دارم. ما کاری که همون اول باید کردیم که به اینو وقتی حاج قاسم آمریکا یا زدن دقت کنید. اسرائیل رسما اعلام کنه گفت ما نقش نداشتیم. چرا؟ چون ترسیدم. وقتی اسرائیلی ها پایگاه تیفور رو ما رو تو سوریه زدن و ما شهید دادیم، ما خون پاره زدیم دیگه. از اونجا به موازات تو جولان خونپاره سرادیه. سری روسا رو فرستادن واسطه کردن گفتن تو رو قرآن ادام نه. فکر کردن حمله وعده داده شده ما چک گرفته. می‌خوام که بزنیم سو... یعنی می‌ترسید توی روندی دستگاه محاسباتیش به این تحلیل رسید که می‌تونه بزنه. حرف‌های در ایران شنیده می‌شود که مردم همراه نیستن. اینو خیالش راحت کرد. اینکه رهبر انقلاب گفت یک کاری کنید دستگاه محاسباتیش برگرد به کارخانه. خب همینه ببینیم دوستان ما مانور برگزار می‌کنیم برای اینکه خودمون رو همه کشورها مانور برمی‌گردیم انکه خودشون چیکار کنن اورهال کنن خوب همیشه تاپ نگه دارن تو مانورا سلاح جدید رو نمایم می‌کنی و اعلام می‌کنی امروز ایران امروز پاکستان موشک شاهین سر نمیدونم ایران موشک نام چی چی برای چی برای چی باید به دشمن بگم من موشک دارم بعد بگی وقت الاغ حمله نکنیم ما. اون صدام احمق دستگاه محاسباتیش ریخت به هم فکر که سه روزه میتونه تهران رو بگیره هم خودش رو بدبخ کرد هم ما رو ما ما بگیم ببین ما دنبال جنی نیستیم احمق ما ما حمله نکن ماجره رو تسعید نکن اینجوری نیست رو بزنی یه نیرگاه اتمی رو بزنی من بیکار بشینم ها. از الان بدون میتونم بزنم اما اینا رهبر انگلا گفت بد عمل کردید یه پالسای مساحبه های بعضیاتون ایشون این عبارت رو نگفت من میگم یه پ سای فرستادی در داخل که آیا مردم اکن نیستن حالا ببینیم چی میششه؟ ما میخوام ببینیم حالا آتش. بس جواب میده یا نمیده فلان خب این اثر بعد گذاشته اون گرگ و تم کار کرده هم همینجوری می رو یه بار حمله که برگشتی خبره الان شده شدهگه هر روز هو به ماش میره سوریه میزنن برمی. چون خیالش راحت فهمیده چی این تصمید کرده تو تازون جدید این نبد اینجوری باشه چپ نگاه کرد بعد بخوره سریع انبد بخوره. خیلی سریع با سرعت باید سرزر بخوری که بفهمی تو و متنوع هم بخوره مثلا به من ببورسی چی میگم آقا بزنی بخش انرژیش رو صاف کنی مطورش رو بیرد پایین چون اون نمیتونه بخش انرژی رو بزنه بزنه قیمت دلار نفت دولار دویست دلار خود اروپایی هم بکنم این جمعش میکنن اینه یا یه جوری بزن اون حیفا ار رده خارج کن که کل کریدور چونج قلب شیفاست میفهمونی که بعد اینو چه انجام بده برای اینکه بفهمونن مثلا همزمان با یه اقدام کریدوری ایران باشه یه جاده مثلا 10 کیلومتری برو افتتاکم بالا تر افتادش من در راستای اینم چه راه آهن کریدوری ایران یک قچی بزن حالا بعد 20 سال رفت افتادش که اشکال نداره خب اون بفهمه که میفهمیداری چیکار می‌کنی من الان نیست تا 100 سال دیگه هم نخواهم گفت کجا کجا کالا بره ها. این نیست امنیت منو به خطر بنزین. این مدل تصمیم گیر تو کشورمون کم داریم اون تحتیه جان من بودم بله تو کشور ما تحلیل هست که میگن یه جوری بزنیم که ترام سرکار نیاید اینا مثلا بهتره خب این واقعیت من بودم اصلا با انتخابات آمریکا کارش هم شب انتخاباتم میزدم شایدم زد خب که چی؟ که بگم ببین اسکیل من گندهتر از انتخابات توه متوجه شدید؟ چی؟ که ترامبیه سر کار؟ تباتش برای کیس میشه؟ چی میشه؟ تحریم ها میشه؟ کدوم تحریم؟ الان دیگه بعدش دیگه جوکشه تحریم هستن دیگه مثلا فرمانده سازمان اطلاعات سپا رو هم تحریم کرد سردار این سرداره مثلا تو ترکیه خونه داشته مثلا تو آمریکا خونه داشته مثلا دیگه چی؟ اصلا تموم شده ببینید تحریم رو تا فیها خالدونش رو در آوردن تشمید بنزین رو تحریم کردن تا تو داخل ساختیم تحریمش رو برداشتن چیزی رو که بفهمن فایده نداره این اصلا باید. شما هم بگو دیگه تموم دیگه بله حضرت خب برای متأسفانه سوالشون اینه برادرون آقای آقا سبحان میگه که آقا سبحان میگه که چی؟ معلم چی؟ فزیکن. شما هم فیزیکی ترمکیتون خب میگه که ببین اگر مثلا حضرت موسی سه هزار و سال پیش شده تو میگی سلمان و داود کمچه دوزار اشست سال من پونست نمیزرم روش جهن نمازرر میگیم که اونا رفتن اونجا خب کوچ کردن مثلا رفتن اونجا از مصر بردشون اونجا خب با. پس مال اوناس تره اگر قدیمی تر بودن در جایی رو مبنا قرار بدی تقریبا نصف زمین مال ماه حقامنشیان بزرگترین امپراتوری جمعیتی جهان بوده یعنی پنجاه درصد جمعیت مسکون جهان تحت حکومت ما بود این یک دو یه تحقیقی همین, همین حرف را نتانیه ها هم زد میگه فلسطین حتی رفتم واژه سازه کردن یعنی پدر سوخت اون فلسطین در لغت به معنی مهاجره اینا از یه جای دیگه اومدن از کشور دیگه اومدن اینجا مهاجرت کردن یعنی چی یعنی مال اینجا نیستن یه خانم به اسم آریل اوپنهایم استاد ژنتیک دانشگاه بری اورشلیم چرا اسم میدم برای اینکه بری سرچ کنی اومد این مطالعات ژنتیکی کرد مثل بم ترکید نتیجه چی بود نتیجه این بود که یهودیای اشکنازی هیچ رابطی با حضرت یعقوب اینا اصلا رابطی با حضرت موسی ندارن اینا 40 درصد ژن مغولی دارن. بله. اینا از خزرهان دیگه، اینا کوچ کردن رفتن به شدن یهودیایش یهودی اروپا شرقی، لهستان، بلاروس، اوکراین، رومانی، مثلا همین ها و لهستان اون شرون بی شرف مال بلاروس بود اینا یهودی های اصل قدرت اونجاست این چل درصد جالبه چل درصد دیگه ژنم باز مال قفقاز بوده این آخونداشون خاخاماشون کلایی که سرشون میذارن یهودی های اشکنازی عیدقت کنه یه کلا پشمیه بزرگه این چرا کلا پشمیه کلاه منطقه قفقازه خب اینا یک شبه همشون یهودی شدن رفتن اونجا و این خانم دکتر در ادامه تحقیقاتش متوجه چیزی و یه دکتر یهودی دیگه من اندن دو تا یهودی پیدا که دهن اینا رو بنده. اون یکی که میگه آه هر چی میخواد به من بگی من یهودی آن باید حق و بگم ارائهش تو تد هست. برید ببینید 20ست فوق العاد است. اونجا اثبات میکنه که فلسطینی های مسلمان و عرب ژنشون به مراتب به یهودی ها نزدیک تر تا این یهودی مهاجر. یعنی چی؟ یعنی ساکنان واقعی سرزمین فلسطین یک زمانی اول چی بودن؟ یهودی بودن. بعد چی شدن؟ مسیحی شدن و بعد چی شدن؟ مسلمان شدن. اینا جدندر جد اندر جد باباهاش نه همونایین که اونجا بودن. اصلا همینان با موسی اومدن. یه <several him Italy> بخشیشون. ببینید خوبی ژنتیکینه. مثل ترکای جلسکیشند استوبرم بالا. الزا ماشاءالله. هلدی ایلر ها. مثلا مثل گوش مثل ترکای ما آذربایجانی‌های های ما آذربایجانی‌های های ما زبانشان ترکی شده است به خاطر همین مجاورت چیز قرار گرفتن مجاورت همین خزرها خزر از واژه گذر میاد جزر. گذر آره حرکت میکنه یک جا یک جانشین نبودن اینا حمله میکردن خب آرام آرام خیلی تلفظ شد حتی بر این هزارها در افغانستان هم از همین لفظ از این لفظ برخی یکی از بجوع اینه. اینا بعدا اومدن چی؟ شمال قفقاز مستقل شدن هم هم چی؟ جنوب. آرام آرام زبان اثر گذاشت. مثل مثل ها که عرب نیستن زبانشان عربی است. جانکی خوزستانی هم داریم. آقا اینجا باز بریم سراغ مطالعات ژنتیک. چون این نفر میگه آقا کی گفته این جوری نیست، فلان بوده این حرف میشه. ژنتیک همه چی اثبات میکنه مردم آذربایجان جنوم مادریشون 99% با بقیه مردم ایران مشترک. کی میگه دکتر اشرفیان بناب؟ ضد انقلاب؟ استاد استاد دانش انگلیس. ایشون افشرم بناب، خودش ترکه، بنابیه. خب جواب بناب خورده دیگه. <تصفح> آفرین. این اومده اثبات میکنه ژن عربی در مردم آذربایجان بیشتر از ژن ترک است. این خیلی عجیبه یعنی 사ادات آره بیشترن تا این مطالعات حوزه زبان شناسی که بنده بسیار بهش علاقه دارم و به خاطر همین مطالعاتم هم لازم دارم و رفتم یاد گرفتم و با اساتید مبرزش در ارتباطم و مدعی هم اصلا یه جههایی اینم اینو اثبات می‌کنه مثلا بسیاری از ببین این ببین بگم اینا هم دیگه همجگی وصل نپاشم خسته شدم نگاه کنید این که ایران بوده ایران امروزی میگم ایران کوهن رو نمیگم چون ایران کوهن همین بزرگتره دیگه خب چه روشن کنه ها اینو ولش کن همین رو ایران بگیم خوبه هر چقدر دیر بشه اونجوری من برم تو حف دیگه باز دیه فوشر میدن به ما نگاه کنید ببینید این منطقه بچه‌ها این منطقه این منطقه منطقی بسیار سخت از نظر زمستان هاش. مردم کوچنشین از دشت آلتای تا مجارستان میکوبین 500زار کیلومتر می حمله میچن. نونشون از چی در میوردن؟ حمله میبرم بر. خود آریایی ها که الان اومدن تو ایران یه زمانی از همینا بودن؟ آره نه واقعیت توضی می همینا بودن مونتا صحبت زنی که کی اومدی یک جانشین شدی. واژه تور یعنی غیر یک جانشین توریسم خب الفانون مکان بگیره میشه چی؟ توران اینجا بودن. بودن. بودن. خب میگم از اینجا از دشت آلتای تا اینور حمله میکرم میمادم میرفتن فرق اینه که مثلا ما چار هزار سال پیش اومدیم اینا هزار سال پیش خب ما یعنی چی؟ الان صحبت سرینه زبان مردم ایران قبل از حمله آریایی ها چی بوده ببینید اینا مهم اینا مطالعات ژنتیک نشونه ما همون مردم ایرانی هممون خب آریایی ها وقتی حمله کردن از این بالا اینا به سه بخش رفتن دیگه یه بخش اومدن سمت هندیا هندیا زبانشون قبل از حمله آریایی‌ها دراویدی بوده زبان دراویدی اما زبان فارسی رو زبان هندو و اروپایی رو زبان آریایی رو از اینا گرفتن به ایران حمله کردن به اروپا حمله کردن ژرمن ها و اون قصه این عدد قدیمیه 4000 سال اینجوریه خب اما اینجا خالی از سکنه بوده خیر، متولات جنتیکی نشون میده بشر اولی که اینا میگن از آفریقا آمده و صفحه عربستان گوش کنی صفحه عربستان و آفریقا رو یه صفحه میبینن چون خلیجه دریاسو خیلی چیه کم امقه تنش‌های آب و هوایی هر عبور ازش راحته یکی می‌دونه اینجا که بشر اولیه بوده اولین جایی که اومده سکنا گرفته ایران بوده همین وایکینگا 11000 سال پیش از ایران رفتن مطالعات ژنتیکی اینو تایید می‌کنه خب تو نمی‌دونم اینا اومدن اینجا حمله میکردن ببین اینجا سرزمین ایرها الفونان رو مکانی بگیریم میشه چی ایران لند بگیره من سرزم میشه چی؟ ایرلند, ایرلند. اونام از ما خب یا مثلا یه چی دیگه باید خواهم بهتون مگم گیل ها گیلان, گیلان، گل ها فرانسه خب اینا هم, هم یه نجادن زبانشون تو کلمات فارسی دارن این کش ح و سه خیلی به هم تعبیر میشه به خاطر اینکه تی ایچ می نویسنش تی اچ تلفا ت تلفظش اینو هم د تلفظ کردن هم ه تلفظ کردن هم سه تلفظ کردن. درسته مثل هند و سند مثل محتر کهتر بزرگتر به جای حس بذار مستر کستر مستر یعنی بزرگتر بلوچ داریم اینجا چی میگن مستر کستر نادر شما خوابه <تصفيق> آره بزرگتر کوچیکتر همین الان استفاده میشه سه تلفظ میکرم هنسن ده میشه چی؟ دسی ده تایی ده تایی خب دارید یک سری چیزا جمعه خب ماه دهم ده میشه چی؟ آفرین دسامبر ماه نهم نوامبر ماه هفتم ه هفته نگاه کن هک سه فک پ اینم ته سپتامبر 8 اکت، اکتا پا اوس، اون اوسش که یونانی هشپا، اکتا اکتبر ماه هشتون زب کن جان نه ماه ده ماه. ماه ده همه. چرا اونا میگن ماه دوازدهم همه؟ با این که خولن، چون اوله با این افت... تمدن ماست و خارجی بعد من ما ماه رئیس جمهور ماگه ما میفهمید رئیس جمهور ما بولا میش میرافته که شهر خارجی اینجوری حرف میزد خب این فروردین ماست فروردین اول سال بوده هر عاقلی بهار رو میذاره اول سال اینا ما دسامبر ما ده هم اینا اومدن اسفند و هم اضافه کردن به خاطر چی من گفتم مسیح اومده اینجا به دنیا اومده دو ماه اضافه شد دسامبر شد معلومه برای اینکه ماهای میلادی رو نکنم اینا رو میگم دو تا میذارم گوش فهمیدید ریشه ها اینجاست ریشه ها اینجاست خیلی از این کلمات بسیاری از کلماتی که شما گوش کنید دارید استفاده میکنن غربی ها اینا ریشه های هند داره هند و هم پروتو یعنی ریشه اولیش خب پروتوش این هند هم اینا بیخود آوردن گذاشتن ها برای اینکه انگلیسی ها رفتن هندو گرفته بودن هندو گفتن شما غریبه روفته نه این با هم دیگه زبونمون یکی بوده این و این زبان اسم درستش آریاییه همین گیل ها گل ها الان مردم کروات اینا اینا از ایران رفتن خب اینو مهاجره ایرانی بودن اینا خیلی دیرتر رفتن بله زبونشون خیلی اشتراک دارن ما الان در قفقاز یه منطقه داریم زبونی دارن زبون ایرانی اسم زبونش ایرانیه وقتی حرف میزنن کلماتی که دقت میکنید و گوشتون به ریشه ها آشنا باشه قشن میتونید تشخیص بدید خب من این وقت چی؟ من نمی‌شناسم اونجا کجاست. <تصفيق> خب. ببین چی می بگو. روستای چی؟ اونا هر چی بگی من در میرم رو. رفتم تتوشتم. اونا مال رومانی هن. چند سال پیش یکیشون اومد توی فیسبوک. آره. روس کوی زر نمیدونم چی چی بود. زرگر؟ آه. ببین اونجایی؟ آ. باش حالا یه نفر اومد آره اینا باید بذاری ردیف جلو این دوتا را میهه که بلش کن آره اینا رفت یکیشون اومد تو فیسبوک گوه آقا ما نمیدونیم زبونمون چیه یکی بیاد به داد ما برسه سه تا از جمله شنو رو فنگلیش ما چون جونه می نویسیم اینجا گفت کسی میدونی چه زبونیه رومانیایی ها آمدن گفتن تو داری به زبون ما حرف میزنی اینا همراهان ارتش اسکندر بودن وقتی میان در ایران ساکن میشن همینجا ازدواج میکنن مسلمون هم شدن شیعه هم هستن خب حرف صحبت خودم. اینا وقتی از این طرف حمله میکردن گوش کنید مثلا اصله دسته این بوده نگاه کن میاد اینجا تو به زبون اون حرف میزنی اون به زبان اون تو حرف میزنه تو به زبان اون اون اصله اون چیزی که داشته رو گوش کن داشته رو معادلش رو ببینه میگه آب بوده اینجا سو ببینه میگه سو اما چیزی که نداشته تا الان مثلا بریم ایتالیا میگیم چی شما میخوری میگم پیزا آه هم بده یا مثلا اروپایی رفتن استرالیا کانگورو نیده بودن اختصاصی اونجاست گفت این چیه؟ گفت کانگورو. کانگورو یعنی چی چی میگی به زبان ای اونجا این گفت این چی برگ چی چی میگی؟ الان اروپایی میگن چی چیزیی میگی. همه دنیا ماده میگییم چیچی میگی. ما اسم اصلش رو چون نمی کید. اصلا زبون رو میتون نمیفهمیدن. ببین چی داشته؟ این آدمی که تو این منطقه بوده بچه ها؟ گوش کنید. یک اسب. چی براش مهم بوده؟ آتش. دینش چی بوده شمنیست بوده. تنگری باوری یا تانری باوری. خدای خورشید خدای ما. چی برایش توتم بوده اونی که ازش میترسی آروم آروم برد مقدس میشه گرگ چرا حمله میکره به گوسفندش؟ حالا بریم تو واژه ها عصب چی میشه به ترکی پریدن چی میشه انداختن چی میشه همش اسبه نگو پریدن بگو اسبیدن اون مبنا بوده خب توی این هوای سرد و فضای سرد ما رفتیم نشستیم یه جا چی برامون همه چیزه؟ اوت بشینیم اتراخ اتراخ اتراخ ادوم یعنی هیزوم همه چه بوله آتیش میگیره حالا اومدیم وارد ایران شدیم ببینیم اسمهای شهرها اردبیل اسم خودشون آرتویل آریای اسم دشت مقدس آرت هنر آرتین همین اسم ها از این گرفته میشه تبریز سرد میانه وسط راه مرند مندگاران ها مراقه همون قذبین شما مراغی ها ندارید اینا از مراقه با حمله مغوله ها فرار کرد اومدن این طرف میخوای بدین من دوم قبلا زبونشون چی بوده ببین مراقی ها زبونشون چی نزدیک علموتان خب اومدن روستای کندوان کوه میکندن دیگه اسمش چیه کندوان رزاشا هم میخواستیم تونلو بزنه تو جاد شما رفینا رو گو بکنید شما ما تخصیص کاری دارید کندوان اسم تونر شد کندوان خب اما موانه تبییر خودت میگی لشکر کجا اتراخ کنیم کنار اون کوه بزرگه گره داخ گره باخ دل چای آج چای رودخانه وحشی رودخانه تلخ اینا رو تو اسم میذاری بعدا یه سری از مناطقم بعدا اسمشون هم چرخوندن مشکل اما اصل میبینی اینا رو زر جاش اینا دو هزار سال اسمش همینه. سه هزار سال اسمش همینه کروش هم اومد چیکار کرد؟ اومد اینجا یه دونه صد ساخت اسمش شد چی؟ اونا گفتن داریال یعنی داریول راه تنگ اینا گفتن چی؟ دربند شهر دربند در جمهوری آزرباجان بریم نگاه کنیم بله؟ درست. من گفتم جنوب آها. آه. دربند آه. نه میخوام درست بریم وقت نداریم آذر آره بیا وست آزر بای جان چرا؟ جنوبش آره درسته درست, درست. آفیان داغستان جنوب داغستان نه درست میگید دربند داغستان اینا ها شیشه قد شده فکر کنم ترنت آره ببینید دربند خب این در من بریم شرعای زیرش مثلا اسمشون چیه؟ اینجا سیاه زنه شور فص خب ماد ماد یعنی چی؟ کسی میدونه؟ ماد یعنی گل ماد یعنی گل <تصفيق> گل انگلیس شما همینه. چرا گل؟ اینجا ای که از بزرگترین اتفاقات کره زمین میافتاد بر همین زرد از اینجا در آمد از آذربایجان چی عناصر اربه یک جا تو زمین یک جا پیدا شد و به صورت شگفتانگیز و مجیک و جادوی دشت باریکالا گل های پلتخ ولکانه میگن ولکان یعنی چی؟ آتش فشان ببین گاز میمد بیرون باد آتیش میگرف آتش گلم که داشت خاک آب آب باد خاک آتش کنار هم دیگه بود برای همین مقدس شد دشت مقان مال اینجاست مقاها بودن دانش ویژهی داشتن تو مردم وحشی اون زمان همه کف میکردن علم ستاره شناسی بلد بودن بر همین دانش اینا شد چی؟ مجیک آنچه مربوط به مقه هاست ریور مجستی عالی جناب حضرت. اصلا که ادبیات سلطنتی و عالی جناب مالی جناب بازم مال ایرانی است خب کلمات حتی عربی شاه تو عربی رفت شد چیزی که لذت بخش مال شاه هاست. وقتی شما جامره شما اون معلم از هویت توحی کردی شو از بین بردی رسالتید منم گ امروز گروش کبیر بود نسبت به مسئله فلسطین و اسرائیل بی بود یا میرفت دهشونو سرویس میکن این استرا همین کار ما رو میکرد شما ما من حالا اینجا نگاه کنید اینکه تا اینجمد بچه ها چیکار کرد؟ هم هدیه به شما. رفت مسئله را این خط سفید رو ببینید این دقیقا همون خطیه که اینا نمیتونست سن چی اینجا این سفیدی؟ تمام برف یعنی ارتفاع نمیتونن اصلا اون گذرگاه ها رو بست با چی؟ با آهنو مصر زلغرن مگه نمیگه برید اینجا ببینید معدن آهن داشکسن مالکیه معدن مصر بولا زمان و عصر مفرقه نمیرفتی که کرمان بر داره ببره از همونجا ابزاری که دمه دستش بود ما چیکار کرد همین الان من و شما سنگ میچینیم برای اینکه نریزه توری آهنی نمیذاریم یه سازه فلزی که سنگ توش گیر کنه اینا نتونن رد یه تیرانداز از بالا میتونست یه لشکر اینا رو چیز بکنه نگه داره اینا موندن شمال به وضوح بین چهره های جنوبی کوه قفقاز و شمال قفقاز تفاوت آزربایجانی و تو چشاو ابرو تو همه چی کاملا اینه یعنی به مراتب خراسانی ها بیشتر تحت تاثیر ژن شرقی قرار گرفتن حملات اونجا تا آذربایجان تو کوهودن حالا من موندم یه عدی تو آذربایجان قفلی زدن اینا مشکوکن هم جن انگلیسی به زور میخوان ما رو به کالا توران میخوان بسازن نگن چی میگن نه ما مغولیم بو نشستم به قراق به جور در بیاد داخل مغل بودن اشکال نداره ها الله از ققوم این سن بودن ما اما خب مغول نیستیم چیکار کنیم به زور میخواد بگی تا تبریزیها رو به چی به چه شبرو رو می به چه شبرو رو می شناسی؟ خش اون جنشرقی آلتایی که دقیقاً چش و ریز اشکالی نداره و باز من تاکید میکنم خدا پخش کرده هر جووری از هر خاص آفری که سیایی که سفید لتعارف بود و کمدیگر می شنوید اینه اون نبدین رو بهیم دست میزنیم این اشتباه ما میخوام اون کسی که مثلا هم ژنتیکی ترکی بوده هم زبانش ترکی بوده تو ایران بگم که هم بتونه بتونعرض ترک منمون همون چهره رو دارن هم زبانو آرام آرام اینجا آمد بر هم مثلا اینا اومده بودن قزه کوفته مال ما بود نداشتن اسم قزه رو چی میگن موقع همون که هست میگن چیه میگه کوفته میگه چوفته یه خورده فقط تلفظش اینجوری میکنه چیز دیگه نیست انار نداشتن همینا میگه و اصولی که مال خودمون بوده، فرهنگ ما بوده، مال ایرانی بوده، همین استفاده می‌کنی. آرام آرام آرام آرام این زبان زماسای بده نه، خیلیام خوبه. افتخار می‌کنم بلدم هستیم. صد جا به درد خود من خورده. کشور دیگه رفتم عربستان رفتم با همه صحبت کردم، با ترکیه ارتباط گرفتم. خود ترکیه ها ما چه چیز نیستن؟ و ترکیه ها هم تو اینا بیزانس شرقی هن. اینا مثل عربا که زبانشون مصریو عربی شد، اینا هم زبانشون ترکی شد. چی شما؟ تمدن اینجا بوده شد اولا همه پیغمبر ها اینجا نخیر ببین هر کسی از, از آسیا میومد اینجا بارنداز بود بره بالا منطقه خواهریمه شد منطقه انبیا الهی خدا به حضرت ابراهیم که زاگروس نشین بود دستور داد الان ما نمیخوام به خدا هر چیزی به ایرانی رب بدیم نه زاگروس نشین بوده اورام اسم ایشون اورام میگن همین یاودیاله میگن اورام اورامانات شمیرانات همین الان ما داریم استفاده میکنیم اسم دختر اموش چی بود؟ سارا بازم ما داریم استفاده میکنیم اسم بردرزادش چی بود؟ لوت یا همه اسما با این زبان ما قابل هجی کردنه اسم جدش چی بود؟ ارفخشات ارفخشات اینو همین اسم عموش چی بود؟ و ادقال ابراهیم لعبیه آزر اینا بزمال ما. مثلا تنشه دیگه آزر آگر آیر آتر تو تمام زبان ها آزر بادگان پادگان آزر محل نگه داشتی آتش از در روایت داریم روایت تاریخی ها مسلمانو اعراب گفتن زرتوشت آزربایجانی یه فرضیه یه مثلا مطرق که احتمالا نزد ابراهیم هم زرتوشته و زر پشته یعنی از پشت آزر از نسل آزر آذر پشت ره یه فرضیه است خب ایشون بلند شده رفته شو باید کار بشه چرا انقد سا چرا سا میشه که حالا اگه بچه تاریخ و جغرافیا چرا انقد یهودا براشون اشیاءات مهمه چرا انقد روز تاریخی کار میکنن برای اینکه اینا رو بتونن بپوشونن برای اینکه بتونن تغییر بدن اینا هویتیه نه خیلی مهمه دوستان پس این منطقه ادجان به دستور داده شد برو فلسطین چرا فلسطین نگاه کن. آسیا اروپا آفریقا بورو تو لولای صقاره پیام توحید رو پخش کن کرد 2.5 میلیارد مسیحی همه ابراهیمو قبول دارن دو میلیارد یک میلیارد 800 میلیون مسلمان همه قبول دارن حتی بقیه میگه یا زن دیارش به اسم کتورا یا قطوره از اونم 6 تا بچه داشت حضرت ابراهیم که اونام تا بحر فارس پخش شدن یعنی تا ایران اومدن پخش شدن ای بسا برحما همون ابراهیم باشه که رفت در هند حالا بعدن آینش مورد تحریف قرار گرفته هیچی یا کل 1.780 میلیون بودایی که شما توی چین داری همشون توسط یه ایرانی بودایی شدن یه شاهزاده ایرانی رفت اونجا اینا رو بودایی کرد یه خورده ادیان بخونید همین تاریخ براتون دست میده آیا ما پیغمبر دیگه نداشتیم چرا الان ما یه روایت داریم البته سندش مشکل داره خب میگه کان ارسطوتالیس نبی ارسطو پیغمبر بود خب منتاج چیه؟ الان پچه رو فلان حرف زده مگه مطمئن نهر از تو این حرف زده تو الان بری تو تورات بخونی که حضرت داود که نابودش کردن که زنای محسنه داره الله حضرت سلیمان بود پرستیده آره یعقو با خدا کشتی گرفته این تحریف کردن نباید مبنا و سند باشه حضرت هود حضرت سالح اینها عرب نیستن حضرت اسماعیل عرب نیست مستعربه عرب عدنانی مستعربه عرب قحطانی عربه خود لفظ عرب یعنی چی؟ بادینشین تو، توریک یعنی چی؟ پارسیک و توریک شد ترک یعنی بادینشین جالبه عثمانی ها عثمانی ها به توریک ها فش دادن تو خودت از اونایی این معنیش چیه؟ یعنی من یک جانشین دارم به اون بادینشین چکا میکنم؟ تو بدی کردی که من نمیگم فش داده که اونها هیچی نمیفهمن وحشیان نه نه نه عثمانی ها خودشون نه خود همین یک ببین اینا در اصل سلجوقی اومدن یک جان اینجا وایسادن حکومت کردن اینا به اینا به اینا فش دادن به بالاتریشون فوش دادن گفتن هنوز مثلا به ها برید شما تحقیق بکنید اینا به حدی جنگ قدری بودن اما وحشی بودن مثلا یه روز میگه من وارد چه خیلی از اینا تاریخ عرب نوشتن میگه من وارد اونجا شدم احمد بن فلان که از ایناست که خوندنیه سفرنامش حتما فیلمش رو ببینید 13مین سال عاشور 13مین سال عاشور زندگی احمد بن فلان فیلم دیدنیه خدمت شما عرض کنم راست بازی کرده دوبل فارسی هم شده برسونم دانشگاه خراب شده تون بذارید ملت بیام بشینن نگاه کنه عشق کنید خب چاشمونام ایران اینا هم. حتما خب بعد جلسه به من فیلم آفر بدین منم نگاه میکنم بعد برید اونجا نگاه کنی قصه اینه اینا وقتی وارد میشن میگه به چنگ ها به چنگ تو توز جمعه آدم آب میخوردن که به این بوده دیگه میخواد بترسونی ایجاد رعب و وحشت کنی خب بچه ها سرتون دردام ببخشید ما هم هنجرمون دردیرف یا علی خدافزشون یه سرات بفرسید